سبح الحمد لله اداء المتوحد عزه وكبريائه فالحمد على قدره وقضائه وتفضله بالعطايا وبره ونعماءه فمنني بادائه اشهد ان لا اله الا الذي بهدايته سعد من اهتدى وبتوفيقه رشد من اتعظ ورعا اذ بخذلني طن منزل وغوى وحاد عن الطريقه المثلى واشهد ان محمدا عبده المصطفى ورسوله المختار بعثه ال اليه داعيا الى جنانه هاديا فسلامت الله وسلامه عليه وعلى اهله الطيبين الطاهرين وصحابته ومن التزم بهديه الى يوم الدين ام ابد مسئله موسیقی حتنا که این اصطلاح موسیقی از واجه های فارسی یا واجه های عربی نیست که ما استفاده می کنیم اون واجه ای که در اصطلاح فارسی خودمان به کار می ده آهنگه کلمی آهنگ معمولا در واجه نامه ها یا پرهنگ لغت های فارسی به کار می برن مسئله آهنگ یکی از مسئله روزی هست که کتاب های مختلفی در این جمینه نوشته شده طلاب به قول خودشون در این مسئله گیچن نمیدینن حق با کدوم طرف دنبال حقیقت هستن در این مجلسی که ما رو چستیم هدف این نیست دالاب الفرس یکی بر دیگری قضیه رو کنه یا مثلا بحث پیروزی باشه بحث اینجا ارایه ادله است هر کدوم ادله خودشونو میگه یک امتحانی است حضرت سلطان طلب درسمو و عقده داره به قول ما یا گله داره از اینکه هی ای امتحان می‌گیریم و سخت می‌گیریم الان امتحان معلوماته اون استادی که سر کلاس میاد تدریس می‌کنه و یک معلوماتی به طلاب اراعه میده الان باید امتحان بشه حدث امتحان طلاب در اون معلوماتی که داره چقدر میتونه از معلومات استفاده بکنه چقدر واقعا میتونه کاروردی از اون علم استفاده بکنه ما در این امتحان شرکت کردیم تا این که الان ببینیم نوره چند بگیریم حدث گفته اول و آخرت اینه که ما به حق برسیم و حدث اینی که ما ذهنمون باستر بشه و بتونیم تشکیس بدیم که هم کدوم یکی اونایی که میگن جایزه یا اونایی که میگن جایز نیست این خلاق سه و مقدمه اون چیزی که من بی کنم در این سه چار بیته تقدر دویش اشاره کنم باستید که حدیث شما باستید این که به صلاحی که واجهی که ما بکاره داریم آهنگ یا کلمه آهنگ این کلمه موسیقی مرکومه در زبان درست خلق شکنه واجهی جدید مواصر یا واجهی از بلکس این دبلاج کلمه آهنگه برسید من دوش ما موسیقی از دیدار در کلمه تو همون آهنگه آهنگ از هر چه برمی آهنگ ne ohënë që llogat mia dështuan saktësisht qadmen qalbuzat e shejtan abe jismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rasulani والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين subhanallahi wa bihamdihi nashtana ista'inallahi wa'staghfiruhum ma la kadza ismude sagarahade sallallahu alejhi به نمایندگان جامعه ما حاضران و تازه‌داران در احوال سلام و احوال سلام دارم سعی کردم شما و البته خودم از می کنم برای همه ما عزیز هست که برای پاینده اهل سنت حدیثه امیدوارم ان شاء الله شما در آینده بتونید چشم چراغ جامعه اهل سنت ما باشید بنده سلام قدر تشکر دارم خدمت سروران و هستوگوارانی که این مشلیس و این جلسه رو برگزار دوند و آمیواران که بودا من بانا توفید بده که در آینده حسابت که کارهای مالان بینی و به قداش اینجور رو انجام بدن و در راستای بادا بردن دیگی این طلاع گام بدن نگید من واقع تصمیل تحسین هست از طراف smala tashrih universal intilam dzahab mundah. Men, kimbas mundare as, asabat de khodam ro motajaj mikunam ba shey Imam Shafi. Shafi shey dad dar baray atad mundare. Ifadot idam al khosh tadara iz men ba Shafi tadara tadun al maray kay bin akhtalaf al awatil wa al akher. Hana dzal mundah ro fi sukun. الحكمة لا تلحق ولا تساير وفي تمام صفات الامتلال من لؤلؤة النبي فتيوان النوادر وبياض اللجوجة وما يرائي باني قد غلقت وما يخط وما يفاخر فان الشر في جنبات هذا يمني بالتقاطع والتداخل این آدال مناظره های تحصداش نیر بودن چون بزرگوار ها که هستن و این که من تحصدگوارشون میکنن شهر مکانی جمعا آدال ها مناثر هستن و حیقتا این طور که شیر بزرگوار و شهر رفای جوهری هم تر بودن حیقتا حقا از مناظره اینه که تبیر خودم که یحنی که منحل که هم بلینه و یحنی آن حیم بلینه متنان برای ترهده مشخصی شد مناظ در واقع یک خشکیدگیری پکریه در این خشکیدگیری این که کی در بخم میشه این کی برنده میشه این دورده که دورده تماشاچیه، دورده حاضری هست و در اون بحث برندشدن و برندشدن نیست به انجازه که در اش بحث چیه؟ بحث رسیدن به حریفت به از اما جمعه یک داریم در زمان شراقی باز، در همین زمینه دين مجموع كي بفرماتك ما ناطرت أحدا إلا أن تصنّلتوا أن يبهر الله حقا الله لتعامل والغيبانة الشرطان كانت مناظرات أفهم رسول الله ما هي مناظرية مناظرية الهينية كانت مناظرية الدرخية ما أشرت قبلتنا أمتلك تناول سيد محجوحة فأمودان لازم ما qollëna rrugë për të dhënë shkak të mbledhja bëhet. Po çfarë do të thashë? Deri në musliman. Mund të thikë, mund të qetëran, ardhësh në gjana, në gjana, në mend. Kë tërë zmana në gjana në mend, vetë në kasë dorë. Kë ato gjana në kasë, shpesh gjalëndar në mukafeli fardhënia zmana në mend, në mundë në ku çmiat, asuntul mandud. از صمت الممدود، بشم یه غنا حالا، این صمت الممدود، سوان از انسان باشه، یا از حیوان باشه، یا از طبیعت باشه، یا از آلت و افزار باشه، بشم یه کشی؟ بشم یه غنا ما بگه ایشی داری به نام معاذه بسید کنم معاذه که معاذه جمع نعرفه هست اسم آلت به معنی افزار که باش می نبازند افزار نبازندگی خود کلمه موسیقی کلمه راتینی هست میوزیک و در طبان عربی اطلاعا ترکیمه میشه به غنا به درمان فارسی ترکیمه خاصی ندارد به خیلی موسیقی و شاید ترکیمه آهند اه، کلمه ندرد بگون باشد من که برای همین قدیشتر دیگه نباسه باید نه شد راست این در سفرات ما سا جمعی هستید با نکالا بی مقدمه از پنکه سعار کنید این شکل که تو بکن موسیقی شما بر چه اساسی می کنید اتناهیو بر نقص موقع دارید یا این که بر بخی بسیار فقط تا واسه موسیقی که شروع شد کلمه غنا حالا بحثمون اینجا فکر نمی‌کنم بیشتر یعنی بحثمون پیرامون غناه و شدم سلامی که مرادف با موسیقی در انگلیسی هست چون غنا همونطوری گفته هست صدایی هست که کشیده میشه و ممدود هست صدای پرنده هست صدای نمیدونم همه چی هست صدای انسان هست به صدای انسان هم غنا گفته میشه اون چیزی که ما در این بحث بهش میخوام بکرد دازیم بحث معازف از ابزار موسیقی هستن اون تا با ساز گفتن یا معازف و صدایی که از معازف تولید میشه آهنگ یا به صدای دیگر موسیقی یا صدایی یا نبا و یا نبازشی که توسط ساز تولید میشه الان دزده های ساز زیاده پیرامون این مسئله پیرامون بحث حکم آهنگ یا حکم معازف ما تقریبا نزده تا نس از سنت داریم از حدیث صحیح در این مطلب قریب این دلیل دلیل حدیثی هست که امام بخاری رو باید میکنه آنها بعد بحثش خواهد شد بعد از اون بحث اجماع که این منمت کردن بعد از بحث اجماع فقه های عربه هستن و موقفشون در مقابل صداهایی که دزگاه های افزار آلات نوازندگی ایجاد می کنن که همونطور که گفتن گفتن نس حدیث بر تحریمه اجماع بر تحریمه و اقوال ایمی اربر این خلاصه ای اون چیزی که در سؤال شما بود من برزرم تحریمی که الان بکنه محاضر چیه؟ اون الان همه اینجا سردان تنگیه هر به رضا شد چون قدر دانیم تا بنامه همه به منع سلطه مندود اینجا اونطور که آقای جوالی برمودن ایشون حرمت منصبت میشه به محاضر که صدایی که از ابزار و آلان درمیان ندامه در مورد صدایی که از همجره درمیان صدایی که از طرحه درمیان صدایی که از طبیعه درمیان صدوقه شما اختلافی نداره نه هم اختلافه فقط با تعریف معذات که دارن جامعه اهل نظام چیه معذات نظام صدای که اصلا درسته و این که ها یا این صدا حرام هست یا این صدا حرام نیست منظور جایی که در حال اطلاق قاعده کلی داریم که مثلا اجازه ندارن قاعده شنی دیگه اینکه اصل عبادات متوقف يا التحريف بل اسمه العادات الاضاءه وموسيقي ايمن هناك الثقافيه موسيقي جزر اضاءه جزر اضاءه من اكثر الشبهات ماذا نتهم الطرف اللي قادر على تحريم هذا اتهام بين اتقدمه بظلمه ادوات حديثه باب الله ثم محمود ولكن البديله على المنتهي ولي غير على ذلك ما انفذ من قد شال بعده دوره في الدراويه الطاشيني المعتدل بالامام الزردي وتقديم الشريعه الا ان من يعتبر هذا القرار هنا يكثر جدا شيء مهم ما bakti ke awai masjid ke farwayan che uh, awai bashir muqaddas uh, ehtibat shay okay, isho uh, mitune far mazur ashe vel shay in yes no su ayand go baristan man tasaqdam man tasaqdam musiqi be moghla an harama va halal ast ايه لا حرام ولا حلال بس تجي داخل المناقشات متخذه الموسيقى مثل حد ثاني فهي هو حلال وخطير حط بلذا فكرت من جالشتهم بعنوان فضائئ الموسيقى ان رفضنا مثلا ان بعض الناس يقول ان هذا من مناظر تماهيات الموسيقى Nëse dashte ta mamajë në çelika, ashtu që këtë nuk më bëj harzadan halal. In harzot nuk, çon harzadan mosfaq halal nis. Otoni mosqafa haram nis. Suka koran do të vini, natjat bëkuni, zer bëkuni, halal, sa vë 12 bëjë. Fosh me di xejpet bëkuni, natja bëkuni haram në zade. Tanëva. لنمان بعد الدياموريتش اذا موريد داموريت الموسيقية اما مين الموسيقية متلقة قلبك تحليل متلقة الموسيقية ميشنا وطرقة قلبك تحليل متلقة الموسيقية ميشنا شلوك واشا معين بذلك دبس مستعد سنوبه عيش جو حالي سيد فحسنا از دستورات، اا شماره که ارتباط با تحسین مصالح هست. این با مصالح و حالات و حالات ارتباط داره. مطلقا مشکی حرام، مطلقا حرام. اا بحثی که جناب واستاد کردن بحث اینکه اصل در اشیاء عبادات حادی متفق علیه است. اصل بر عبادات حرام ولی که الان اینجا باید واضعم تحین محل نزاع بشه. آیا آیا اون دستوری که از شرم مثلا مشهور حرامه آیا ترک کردن تر یه چیز حرام جز عادت یا جز عباداته اون چیزی که اصولها میگن ترک یک نوع عبادت هم هست که انسانی که مشروب نمیخوره مثلا به فرض در ایامش اجر و پاداش داره اون شخصی که نمیدونه هم دزدی نمی کنه در انجام ندادن دزدیش اجر و پاداش داره ما نمیگیم چون مثلا در فرض عبادت هست خب می نداره روش نه اون چیزی که شعر نهی ازش میکنه جزء عبادات محسوب میشه در ترک کردنش این چیزایی که حالا در ابتدای بحث باعث اشاره میکنن میمونه بحثی که جناب اصدق کردن البینۃ علی المنتقم بد درص این قاعده ما قبول داریم ما هم باید بگینام که خودمون رو بگیم بی احنا متتمبین حدیث اولمون یقول النبی صلی الله علیه و سلم لا یکونن من امتی اقوام یستحلون الحرى والحريره والحمره والمعاز تو اخر این حدیثی که شما می‌بینید حدیث ما که در نمودار هست ابو مالک یا ابو عامر هست بعد از ابو مالک عبدالرحمن بن جن هست عبدالرحمن عقم شکی در صفحه اونلف نیست هرچند که درش اختلاف هست که آیا صحابی هست یا نیست بعد از عبدالرحمن بن غم یک طرف شما مالک بن مریم در طرف دیگر اشقیام بن قیس از عبیق نقیط به پایین ابن جابر هست بعد صدقه بعد از صدقه بعد از ابن جابر عبدالقمان ابن جابر دو شرق را وقت می کنه بشر و صدقه از صدقه هشام بعد از هشام این حدیثم منتشر می شه هم ترشن که از طرف بشرم بازم ما داریم از این طرف بشر داریم از این طرف صدقه که این حدیث این حدیث انتشار بده ان که سوراقی تم که امام بخاری هم در کتاب صحیحش این حدیث رو روایت میکنه الان میمونه مدعی که ادعا داره این حدیث ثابت نیست، باید بیاد نزد شیوائه. چه مشکلی داره این حدیث؟ مشکل از کجاست؟ امام بخاری در کتاب صحیحش روایت کرده، امام بخاری هم هشام نعمر شیخشه، بولا ز حدثانا و اخبرونا ها ازش رو باید کرده چه مشکلی را داره از لحاظ مرد و از لحاظ اصنات این حدیث نسا صریحه در این که اشخاصی خواهند اومد در روز قیامت و این چیزها حلال رو میکنند درمشه رو سپنی تفسر حدیث رو یه با آهسته تا شیخ پولو رو نمیدیم نمید. نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه به درون حضرت دستوری دادن در اصطلاح کلمه حدیث با شاشه حالا ترجمه اش مثلا بهتره رسول الله صلی الله علیه و آله می‌فرمایند افراد امت من می‌آیند که زنا و پیشم به شراب و آهنگ را حلال می‌کنند و جان‌ها کسانی بر سر کوهی منزل می‌گیرند که توفان آنها در گلدله خودش از کنار آنها عبور می‌کند و تنهایی برای حاجتش نزد آنها می‌رود و بدون می‌گویند که فردان از ما بیاد که الله آنها را در شب حلاف می کند و اون را بر سر آمان خراب می کند و از جمع آنها افرادی تا روز این آمد به میمون و کوب تربیم می شود افراد برمان افراد برمان افراد برمان قبل از این که ما اصطلاح مکنیم به حدیث خوب بود استراد میشد به فرآن چون منبه اول ما در تحرین و در تحلیل اونطور که براق من قد قصر لكم با حضر معالیکم الا قد طلبتون بهد و نزدنا معالیک الکتاب و تدیان لغل شهر دوست باشم که اول این رو از فرآن ما اصبار میکردیم بعد تدهیم اون رو از حدیث میگردیم اگر این کار را تجدیداً دوباره از امام بدن و با وجود عفیف هم میاد. میگه هر اینکه کار انجام بر میاد، مثلا علما اشاره می‌کنند اینکه در حال ما تحریم موسیقی رو از قرآن هم به این که خود در قرآن موسیقی حاکم شده. بحث اینکه ما در قرآن لفظ موسیقی را هم دستوری نداریم. در قرآن احکام مجملی از این مصلا اگه در قرآن اومده که ما باید بگو انجام بدیم سجود انجام بدیم تکبارا نداریم باید انجام ندیم که در قرآن, قرآن نمیواد خیر لازمه نیست که باید در قرآن بیاد که ما انجامش بدیم این یک مطلب مطلب دوم خداوند اشاره کلی داره در قرآن به بحث به بحث حرمت اون چیزهایی که شاید منجر به فساد و منجر به خیلی چیزها بشه قل انما حرم من ربك الفواح فظهر منها تاخذ اياتي که هست آیات کلی هست ولی ببکتم لازم نیست که ما در یک حکمی باید همون مطلب در قرآن داشته باشیم همین مطلب شما که این فرمانه شما درسته ولی مطلب که اینجا مطلب هست یعنیه که قرآن، سنت مقدین قرآنه و اونطور که ایمام شاکیمی در مواقعان می فرمایی هست إذا مرت السنة راجعت في معناها للكتاب فهي تفصيل لمجمله وضيان مشفيره وقص مختصره وذلك لأنها ضيان لأوله وهو الذي ذل عليه قوله تعالى فأنزلنا عليك الذكرى لتبين للناس المنسل إليه ولعلهم يتفكرون بلما اضطرار تنزل للسلة الأمام إلا قد القرآن تدل على المعنى هو دلالة إجمالية أو دلالة تبصيرية يعني الشيء عرض للسلال نيس مدد للقرآن تكون معنى يوجد نفس إجمالية به يوجد نفس إجمالية ولذا من بالمره با عايزك كل ما صلى على ان القران وبكليه الشريعه وينبوع لها فبط كثيرا على قائل ان الله قال انك لعلى خلق عظيم فحتى عاشت ان ولو القران يعني يعني خيالا صلى الله عليه وسلم قران مبين بل ذاه هو شيء خياله صلى الله عليه وسلم في بالمره ده واقع حديثنا اخر بل شما نفی نمی‌کنید که ما قانون در باره در قرآن نیومده که رکوع چند رکوع داره چند تا رکعت داره چه سجود تساهل نمی‌گه نه مثلا اینکه کلیت نماز در قرآن اومده جویاش ثمره مشخصه تا اون کلیات نماز ظاہرا موظبه کلیات ثواب طاعات کلیات حج مبادله کلیات حج مبادله کلیات لازم اناکل بیٹھا مبادله کلیات عمر جزئیات نش سنت برای ما تعییر کرد مساجد برای مسنت تعییر کرد سال مدینه کلیات تحیه مستقیضا نی قایم کرد اچھا دس قل انما حق و ربی الفواحش ma vahra minha wa ma vatanha wal ifma wal variya bëghehril haq qodran guf wal ifma qul inna ma hraq wa ma rabbi wal ifma qinaah qinaah qinaah qinaah qinaah anjama dada nga dada nata ve anjama dada nha haram dorsi ma ya nën kërrasulloha sasnë dastur me dhe yuk tahriru anjama bedhe mishhe vajib vajab dastur me dhe anjama nedhe mishhe haram وقتی که یک شخصی میاد نزد یک از صحابه میگه که از کجا اومد در قرآن که فلان چیز حرامه میگه صریح در الذین یوالفون عن امره بعد از آن بحث اونها اینکه از امر رسول تطبیق میکنن و امر رسول با وجود خبر داده رسول ما و اون چیزی که در احادیث اومده فرمات است و اینکه این چیز حرامه و گناهه و اصل گناه هم در قرآن بهش اشاره شده خر انما حق ربّی تمیز و اثم گناه متر متر مکلف ماست اساس کلی در قرآن هر چیزی که رسول الله من بکنه دستور بده انجام ندیم حرام است بدینه در نزد علمای اصول اصل در نفی اینه که حرام است و این چیزی هست که اصل کلی هست که ما میتونیم بهش استناد بکنیم اون چیزی که خوب و پاک هیچ مشکلی نباشه داره ولی اون چیزی که ناپاکه اون چیزی که مشکل داره و شر مشکلشو بیان کرده حرام این تبیین است دلیل است دلیل, دلیل, دلیل کلی از قرآن و تبیین جزئی از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم Allati inim ki shoma etdadimi musiqi in meqisade matub chashat shoma alaan mustaqal shokro bar etebudan musiqi sabit chashat shoma deghada bar askoran etebudan musiqi ro sabit bokunin ba ziyarit az sunnat bar as tabir diarin je barhalan tanbur ro mdamar ro dastou darbuka o khurba o nemuna sanjos bar asl az araba ast is it you know you know about the public is it today ke banir yeg az ayat e kheymashhuri ke awurde mishavad tala ye tahrim musrif hamun ayat e ist ke baradar astunun dar jadaje jalat mein salamat ya sabana nas man yashta ila hadith e nuzula alayhi salamullah bi ghayri annhum yasghna huswa sima yasun أيها شما تبقوني جرشت وَبَرَيَتْهَوْيَاتِ الْمَدَيْكِ إِنُ غِنَاعَ فَيْنَا بَاللَّهِ الْجَنَاعَ اصْرَ فلما تبقى بعد أن تبقى حديث ثماني لها حدث حديث تبقى جناعي في مقدة تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى حدث تبقى جناعي في صداعي تبقى عالم درد تبقى غناعي في حديث نجس تبقى هذا قدر لعبه شبه شبه من بيجي موجب الى بدنا طبيبه عشان بتاع الامتحان من غير ذاكرتي القران وفسيله الله على سبيل الله وله من فتره المسلم لذا ضمن بدا اشياء تعلق بيها ب شيء بملاحظات انا اخذش انا بحكم عندي على في حكم كانت على مثلا این حب بهشه علاقه می گیرد حب به فائد علاقه می گیرد شما از قرآن چه افاده کنونیه؟ قرآن برای مشکیل باعث نبرالی میشه یقل رو بی کثیران و یقل رو بی کثیران زادت هم رشت هم از آخشتی هم اخوان فرصمون فانی برای مومنی جی باشه باعث هرایت میشه هلا هم قرآن برای مشکیل برای مشکیل باعث چی باشه فرصمونی بشه Patërisht mm ke ke që on hataje që më katrin mustadellë beçara muhadimin me muzikën që thotë mëngëro do të vazhdoj vetë vetë jam do të vazhdoj vetë sepse thasi që do çhgjih atë urudhë të ndar zakë të shpërngadë më nuk e dira alam ma qedë më nuk di më tani dhe midan albotin që një asajati qe تأثارات تحرير موسيقين تولد مبلع ايه يا جمعين آية كين آجل أسان مفيد تحرير تحرير موسيقين تبقى مثلا موسيقين هديث ليس بنا أجل يوضل عن تبيل الله وطاشا شما تبعهد شيء يوضل عن تبيل الله وطوليد شيء يشاهد حراما قرآن بابا قرآن يوضل عن تبيل الله وطوليد حراما فشمت من موسيقين و ما داشتیم موسیقیی که امام شافی تحریم شده معلوم کده به تخدیر و امام شافی من ترکت تو از زنادقه از در بردار یک جل... معیش نگه من جل... یک زنادقه رو در بردار را از در بردار میگه یک چی میدارن به داره تخدیر که مردم را با این از یاد خدا از قرارت تران میاد کنم kisha çfarë do të bëni haram mushkili që falë se salla qadir qadisha nuk qetit nuk qetit hatta edhe në namaz midat të qone sepse në namaz kohai tjetër është shkëndarë në namaz të të falton dike të vërtetin në namaz natë të qone balaj të harz qolane nuk e mëshkullni namazi më hai ya'ni ibrahta ashya be ma'lumatesh mere khudesh khudesh ayi be fa'l naz mire ye ki shoma chizuni ach istifade bokunid khudesh ayi chizuni vey to ba Quran ki baare dairikre darakshon es sath gathara ke kholi hai alaykin baash khayli chiz pani chiz ziraat bol bol joiye ye to tarah ke khatr ye matel kulli گفتن عصر کلی ما عصر کلی موردی میگفتیم این کناهه آیا این که دوتا در قرآن نیست؟ در عمر به مؤمنان این که اطاعت هست الله و رسولش بکنن؟ آیا اینه که بحثی که رسول الله عمری میکنه که در قرآن نیست ما نباید انجام بدیم؟ یعنی باید ما ra subhasan hadis e tohet dedi to vakt e vet as dini un çiji ke te kuran sapë shëde po tashin a dlë çe makna dare ke xudaum dige ya alladin amla tu qad bilayde tu rasul ya alladin amla taqra tu qul qul san yusl lakul ma'amale fa man yutta hige ke po man yuttaha wa rasuluhu faqad fadawzan adima allahu ziade ke do ta nis 10 ta nis se fefani çe te dini do khalifun an amre ya alladin amna ati'u ma'a ati'u rasul etu atad rasul پس خودت عم میکنه، دستور میده به این که این چیزها انجام ندیم، حرامه. حالا ما بگیم چون در قرآن نیامده، پس ما انجامش نمیدیم و پس ما قبولش نداریم. این خلاف دستورت خدابندگی هست. و اینکه من آیه از قرآن نیوردم، استدلال از قرآن نکردم. چون که عقیده ی قرآن کجاست؟ ادله های عام میتاس. از رده های آمه هست از اصول کلی مثلا بالفتح همین گناهیی گفتن هر چیزی که رسولا دستور بده انجام ندیم گناه هست. هر چیزی که بگه انجام ندیم گناه الا این که صارفی باشه از اون کجا آمده در قرآن که بل نجسته و کسی که مثلا در بدنش بل بیخته باشه نما داشت درست نیست درست نیست آره چون در قرآن نایمده پس این دستور رسول الله لحظ میشه، بیهوده میشه؟ کنو در قرآن آمده؟ این چیزی که در قرآن آمده میکنونی او جاه حضرت امدالله یقیر او لاقصر والسراء تجاید من مسایدن طیبان نه من برتم چیزی دیگه پس کجا آمده که ادلاع بیر بدنه؟ مجاحب در قرآن آمده كليات شما الاوجاعه من الغائط انسنا الغائط قال لي زميل فاجايه كتاب لي ترى شيء غائر حاضر غائر حاضر شيء قولوا ما هي ديچيه بده خوب بالنسبه لكليات شما الجزء ايش شما ثاني ثالثه وكجاه عليك النماز باطل مشان شريف كجاه عليك النماز خيا صدق دي دي بس اذا هو حد النماز وضوء حد النماز خب وضوء وضوء دارن برده من دلاسته وجود داره ان برای بدم نجاستی اصولا از خود دلیل از قرآن هست که نمازوند وصلیس فقط فقط امام میفرمونه چه شما مسئولیت که ما ایمان داریم علیه علیه زیاد علیه مسجد من حال کسی می يريد الحق ياكم رجل ثم لا ما تعلمون وقتی بحث تاخير میکنه میگه وجود شما نه شما پاسشین کل دستور فهمیدیشون بحث اون چی وجود نیست وجود مطمئن کلام فاکر اما چون نماز نه رو بحث نبوس افرا نه پس کجا میذ قرآن که كيران انا ادوار كنت نمضان بوتري لازم ضروري نعمل ادوار نمضان بوتري اكثر ما كيف ذا قران ما دارين داخل تطبيق ان الانسان بايا طه الله يحب الصالحين ويحب المتقاهرين ما كان اوقات ليس كيران اوقات حق يا انت شو ما تسمع ماشي يا كيران جنه شو ما تسمع ماشي يا ها يا مراد hocam انا اول اول واحد ما شاء الله Tayamba sallallahu alaihi wa sallam Shari'ah ka safi ya shari'ah mustaqil Masallah Tayamba sallallahu shari'ah va xoda shari'ah ya'ne Tayamba mubayyinah va agar ham shari'ah فواقع فقدر ذلك كشف عن خدامن شر خدام بما بلاك سبنا ذكر الصرا فما على رسول الى السلام يراد من ذلك بالغش ان هذه مساله واضحه فلاشاره الى خدامده ورسول الله مبلغ وما ينتق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى وانزل اليك الذكرى لتبين للناس ما نزل اليك من ذكر القران وما دكونا ورسول الله انباء كناما ربوط یک از اون گناه هم شنیدن موسیقی او آهنگ دیدن ظایر در اینجا ما بیمتی جلو جلو دیدن جلو دیدن جلو دیدن جلو دیدن جلو دیدن این جمله کردن هم جلو ایمان نیشید این جمله که کنا پشافیدی کنی حافظ کار بسیدن مگه که هر جسیدی در سنب باید کلیدی داشته باشد یه ایدازهایی که بهش میشه مدرح میدونه بعد خودش این هم به اتراف میدونه سماره اینه میگه که حالا اینجوریه قصد یعنی طاعت قیامت به چه درست میخونه اینکه عقی الله و عقی الله و عسول و عمی خالقه فریح حضر رجاله و عقی خالقه و عدسی محیب آقا میگه میبینی بعد میگه خدا من یک مسملهی رو در قرآن بی صورت ملپر بیانه کنه قیامت به دلاله و عمد و عمد م حالا این بیان این نفس احتمال یک یک بیان برنامه این احتماله است احتمال دیگه‌ای هم داره چه احتمالات دیگه‌ای هم داره وقتی که پیامبر صلی الله علیه و آله تمام اون آیه رو تذیل می‌کنه براش اون یعنی همه احتمالات رو میدونه جناب و یک احتمال هم ممکن اینه که شرط این احتمال نادر ولی با شما وقتی که به جای عمل می کنید به به جای عمل می کنید در واقع مجرد به مراد فتاوا و مدار عمل جا مییید بلکه به سنت عمل می کنید به فرای رسول الله علیه و سلامه عمل دارید یعنی شما در فرای خدا را در دارید اما یعنی اینکه شما در در هر دو اطاعت ندهید اما اطاعت قیامت در راستای اطاعت خداست به اطاعت مستقل نیست چون شما نیده اطاعت نوعی اطاعت مستقل شما نوز به راست موقعی به تو شعره میشید این ما نمی شعره دارید به این از رو نمیده بلید که اقعاق خیامبرد در راستای قرار خداست بلا تشکی، بلا تشکی، مثل که مثلا تاکشاری دستوری در قصیه که خلان دارو انجام بیدید و دیگه خودش میرد و سربازان دیگه کار انجام میدید سربازان بسی فرمان بسیر رو انجام بدن به یکی ارتفاع فرمان فسیر بدرام کردن و به ارتفاع دیگه فهمان و پانشار اجاز کردن و در مانه فرمان هست رو اجاز کردن بلی زندگیر از پیش خودشی رو ندیگه از پیش بارشان بیده ایم ولی زیادی محمد و تعالی این برانی بنابرای صلی اللہ علیه و اکرام قابل حضاب و حد رسول اللہ زندگیر که قدامان قرآنش رو درم قرار داده و کانا قلو کل قرآن قرآن متحبه قرآنیز که قرآن سامه که در بیده دفتا در حتی هستم به حتی همانی دارد به ما میگه این قرآن پیانفه ساسم هم در حالت زمانه به تحقیل بکنه به ما میگه چه قرآن شد و ما تحقیل میشه چون قرآن این دوری کارت در دوی, دوی, دوی نوشته از در حاله کسی شد میان برای این ها طبیعه میگونه تا به پیانفه صلی اللهم علیه و صلی اللهم نمیتونه بیشتر از اون چیزی که خدا بهش گفته بیشتر از اون چیزی که قدا بدیم یا بیشتر از اون چیزی که نصد احتمال داره بیا شکار بکنه بیاید بیده جرافت کنه بتونیم مشروح شهر بیشتر از مشروح باشه شهر پرافر از مشروح باشه شهر چیزی بگی که مشروح از این با نمیگیم نه باشد الحمدلله خود شیفم طورم میگه رسول الله شرح حدیثم شرح قرآن گناه را در بان عرفی میکن اشخاصی میان قاان را حلال میکنن مشروب را غلال میکنن اشخاصی قاان در بان و یک مغالی هست که من دارد بشت زکر بده طلاب علمون خصوان فقهانون اون اون ایک اهل فطح هن و اهل بصول فطح هن خدا این نکرده نباید ما یک اصل قرن پر... قرئس پر... ایس... یا یک اصل کلی را از قرآن استنباط بکنیم بعد با اون اصل کلی میام بر تمامی احادیث قضاوت بکنیم برا یه خودمون با نظر خودمون اینجوری نیست که هر کسی بیاد با نظر خودش بیاد استنباط بکنه قوالی که خود امام شاطبی تذکر میدارد توی کتابش میگه اون شخصی که کشش نداره، اون شخصی که از علم عطول فقق آداری نداره، حق نداره یک کتاب من رو بگونه، به تا اون محقوقات چرا؟ چون یک سیری قواعدی هست که شاید شخص اشتباه به بهمه و ما هم نباید یک با یک عصر کلی، یک جدی که در شرف آمده، دلارت که برکارمتش داره، نباید با اون شکم کلی، اون جد را لحبش مکنیم، این نجماع روش نمی‌تونیم چون اجزا اون, اجزا اون چیزهایی که ما علتش اسبابش حکمت‌هاشون رو ندیدونیم نمی‌تونیم روش قضاوت بکنیم این چیزی که هست که بعد هر چیزی که با تذکر بریم به تلاوت کتاب موافقات می‌خونی دروص نکنی با فکر نکنی چون چنان چی با عقل شما جور نمیاد این حکم جزئی با عقل موجودات اطباء اون چیزی که مراد خودمون در قرآن پیدا نکردیم چه تو حدیث خداینکرده میام با اكل گمان زن خودمون بیام که صحبت بر حدیث پیامبر بکنیم حدیث پیامبر خودشه قدسیات خودش داره همونجوری که خدا میگه مبین رسول الله صلی الله علیه و آله اون چیزی که میگه از خودش نیست اون چیزی که حث و ای خدابنده و ما هم وظیفمون اطاعت از رسول الله علیه الصلا و السلامه مبادر اپیدکن هر چی حالا چه چه ببینیم احکامات رسول الله چه ببینیم وحی منزل از طرف خداوند در هر صورت نص قران اینو میگه که ما باید در با هر حالتی در هر حالتی دلیل ثابت شود در طور ما دیگه چیز بر اساس اصلا برهید کنید این در ابتدای در روند در ابتدای بحث جناب دکتر اه <تصفيق> تا قبل از یه از سلام قبلی بعد اینه که ا چون الان داشت مناقشه حدیث رو به بعد بذارم ببخشید این کارو انجام میدم ا ما چون قبلا این که ما رسیدیم به سراغ روایت که یکی داشت چیوا عطاله و محمدرخش بود ضمن اینکه در آخر موسیفی موسیفی past adat, adat evadatis. Ham padher anjame to qanajat. Arza muzikë, sabet bëkoni te adatete. Ola mirë. Pseani ke in in ti shoba sabet bëkoni te evadatë, mbi anë beshvat dore. Kjo adatë nuk neshat ndalë. Nej. چرا؟ نہ یہ ساری حدیث ہے نا یہ جن ہے ہر کس نے ہر ملک سباقت ہے معرض میں ایک ایڈیٹ ہے کہ مثلا یہاں اس کو مثلا شمال اور مشرقوں دو دینوں کا سبب تو ہے ہاں سماج کا دارالحکومت دوسری بخش میں لیکن یہ نہیں کہ بعض خاص امور مدار کا باب ہیں جو عام طور پر زنا ہوتا ہے زنا خود خاص امور نہیں ہے لیکن خاصی چند معاملات زنا نا ہر قسم کے سمابرات معاملات کرنے کی کتاب میں درج یعنی ترک با این سن خدا شما در معلومت ترک داشتیم این مطلب مثالی بردی این چه ما به احفاظ برای احفاظ شبیه عزت داریم، الهلی داریم یعنی در مسائل عبادات یعنی از بردیم و متقل از عبادات هم معلولت المعنه است حالا ما یکیم باشه عبادات معلولت المعنه نیست نکه توانید الله عبادات ولی من تره احادات آدات حکومی معصولت در مقصد یعنی ما معنای تحکمش رو نمیم ولی اون چیزی تحسی بر خدا همی چون، بقه های ما، بزرگان ما، انفیل ما تر طول داری نجستن به فعلیل احکام کرده و کتاب های زیاری در فعلیل احکام هم në çfarë ka marrë humbje ato ellet çfarë ellet profesor kanë më shfaqur atë tamam gazdhëri atë hakim dergëzi atë tamam tumëni tani i dha axh tani i dha që ellet e kanë mësuar ti çfarë po të gjalla gazdhëri fërmëni درابقی جمعه امان باید درداره بیداره درداره امان را درداره نوبه ایشاری بگیرد مگه که احض در اطباط همزره حیوانات است و اینه منامی بر اطباط همزره نهات نهات نه مثلا نه به ما در لازه تقلیمی بول بودیری از همزره حیوانات دقیقا میگن نه نید دیمه برای دیگه نمیگن ناید داشته بخلی ناید میگه که فرماکن شرکن میگه که چید چیدی ایست که عرض طناعت رو به سرقتشون میده کنه مگه اینکه مثالی در حلقت هست یعنی ایسان همیشه در طنعتش از دید چینایی در حلقت خدا الكتاري في البلدان وميجيه فالتماوى هذه الأسواد يستحيل أن يحرم لطولها طيبة وموضونة فلا تفعلها تحريب الضوء للعندليم بس طائر الضوء للطيور ويجيه مستحيلة تستداري للحيوانات حرامبا فرق البيت الكتاري عندليم كبير برشب الصلاة للحيوانات هذه خرافات بين انسان وحجر هل بين حجران مكانين فلا فين جماد فحيوان ففرق بين الجماد الحيواني سانجا انك قد تدلك هذه الرشيد الدنيان حتى لا شيء عن اشان باطل حلال بل حرم اذا اذا صار يمين هذا عظيم ایمان غزاری با من کامل بکنم بسفره از شماره شیش ایمان غزاری بر احیاد اولوی دین جرد دوتر سال بیست و دوییت ستی نکه تر صدای تند پرندگان نمیده شما گفتید حرامت و به ارتدای تندگان صدایی بیگر شیطا که توسط انسان ها از اجسان دیگر کارت میشنند یاد گرفت میشود مشکل نیست و ارتدا ها از ازاقی موسیقی و تار که با آن ساز زده می کند و از تون باری کلامی که شیخ خودن و انواع نهی، ساز نهی که دین آنها حرام داردت ان استثنام می کند، ادامه این کلامی که دکتر خودن این به نفت هست، حالا هستن که در حالتون شده که نیارده به دکتر خودن من هم بیشی ادم بلکہ این صداها و ادوات موسیقی و تار که با آن ساز زده می شوند و انواع این که دین آنها حرام مانند اتسام شد بلکه میبینی شریعت انواع تار که بدون وزن متناسب زده می شود، وزن در بخش از حرام است تار ببینید برای بدون وزن بزنید تار باز هم دیگه حلاله این صدایی که شما در خشتاون در موردش بدعت نکنید درنده هم باشه باز این ادغام حرام است اینا فقط هم عبادت هست. این چیزی که داخل نی آوردید، جدی دوم صفحه 422 میگه. و اون چیزی که من گفتم در ابتدای بحثه، اونم اینه که عبادت یه سر عبادت و ترک یه چیز عبادته. هیچ‌وقت شعر بر هر چی یه چیز مباح حتمی نشده. چون حرام اگر سرکردین و فرطش داشتین حرامه. یعنی طوری که فرطش داشته باشه بدون اندازه هر کاری حرام باشه. بلکه مباح بود که ترک کردنش در اشتباهی نمیشه سه باشی سه میگنم این سوال ها بود چاپی که آقای جوحری داره درستیه چاپی در که من داره جما با تحتالی که در با این فرقایی میگه میگه بلا گسته ها دیگه ملا دیگه با من درسته بلید که با من داره میگه از این چینایی که گفت ليسثمان ليس ماذا من المداهب بل هي من حالات لا بالاوزاب المدامير التي باثت من هذه الاوثار المدامير من الانغادالي كذا قلت بل استثمان هذه الملاوي بالاوزاب المدامير التي باثت شطوا من منها لا لا لتفها يعني ما نحن متقده كتحريف قال ملاني ما tahrim mazamir ilzat tahrimish be khatir zatish be khatir chi gat be khatir ghayr be tebe'e fazilet na khataye mamadur haram bin la risati al ghayr be ged la nasli limasatiha إذ لو كان اللذة لخيفة عليها كل ما يسد به الإنسان ليه إمامة الحرامة؟ لا يفاصل إن كإنسان ديش لذات فرد شو مثلا شو هو الدليل جالس لذات فرد حرامة؟ بدون المطلع حرام للذات فرد دليل جالس لذات فرد بل كمان الدليل جالس لذات فرد خالد الشعب؟ شو دي حرارات فره خضافات هذي يقول رو حرام من قليل أهل شو قليل انا كرهت بابا كل سن حرب مدينه الله الذي اعد لعباده بالطيبات انا بس قبول شده حرام كرد زينات هاي كه خداست زینت كي خداست براي سنتگانش كيرما ما ده درو زيان قابيده بگين للذين علموا بالحياه الدنيا البلدينات چيه زینت هر چي بده ادم ازو حساب ميكنه مثلا زیمت چشل زیمت چهتای زیباد یکان چشمتش لذب میبرد زیمت گوش شنیدن چهتای زیباد من من من انه لذب میبرد زیمت بینی بودن چهتای خوشبورت لذب میبرد زیمت لنکذت چهتای نکس که داره لذب میبرد و از برای ها میگید چه کسی دیگه هی همانو حرام کن لذبتا یه باقی به نظر بسن یعنی زاد لذبت، یکی فتر شما ذریعی یعنی زاد لذبت بودم اینکه بگید چون لذبت داره حرامه زاد لذبت داره حیرت این اینه در شما بگید لذب لذبت میدید کون یک مثل تحقیق باشه چون خدای نظب کردن در خانب شر رو حراسن میگید زنا لذب داره، نگاه لذب داره این حراسن کن حسن لذبه بری اینکه در خالد شرد و خالد خالد شرد برنائیبه جعر لذبی شما در خالد شر امزام بیدید در نوانی شر امزام بیدید زیر تشید که لذب کنه چیز رفت شما در اجلت تحریب رو در مستقی رماز خالانه بکنه بسید میگن خاطر اگه ترد و فرد لذب ایجاد بکنه تو شما سجور بودید که لذب ایجاد گردن اما Qodna hake r poor fin Helepad Melebiele Tinalih A zina halfra chipset stockher Kashe dite hake wala aspiration kushaka przem wellu ke bisogna resi t ExcelKK kurraset kurraset kurraset kurraset kurraset kurraset kurraset kurraset kurraset kurraset kurraset kurraset kurraset kurraset kurraset kurrasit kurraset pr су Spedo senja Iti luke tarnat illadze hake berLESHTKふr lehetrisse hulia maona felë. حتى اذا ادينا هذه اللذات لمره ليش يا اخو فناك في حرمك الامور فقدت جماعه الناس بها الارتباط بالابتعاد عنها حتى صار الامر في القدره على كسب الجناح جناحه قبر جامعه فصار هذا صار هو الشعار احنشوا ولكنوا قامت النميه فقط امیش که <ملاده> برای امام قرآنی ملائی و مزامور و اوثار حرام شده ندفا که این بوده که این لذت داره ولکه به خاطره بینید که این اوثار و ملائی در زمان خیام بر صلی اللہ علیه و سلم به حمل از اون شعار علیه شرم بوده شايع الجن لوازم شرط بود همراه شرط بود همراه شرطی حب بود همشه چون بود لذا بیان رسول الله علیه السلام اینو حرام کرد ما قالك تحديدها قبل الاصابع یعنی یعنی على يد تحديد الاصابع یعنی تقريبا ذاك غير افضل يعني شيء ما حرام يكون ادواء تابعها حرام يكون دقائق شيء بخلاف هذه يعني اما خروج المتخلفه بالاجنبيه حاله بالاجنبيه في ذاته حرام مش لان حرام مقدمه فالجماع چون مقدمه شنو لازمنا با هو من نطبق الفقد اتصالي في الزواج حرام اذا نكرتهن بالراه حرام ان الزواج باطل ما كل المقادير الخام لا يغادر لان وجد انا الصبر ما ما اتحرم مين لا بتاكل حريم ياكلوا بيكي ما فيش حرامين مجرد ي جيران حوالين دار اطرافيان دار مين اطرافيان هم بترعوا كلام بسر يعني يعني كلام فاضي ما هو انا قضى الامر بمثابه فنيه لمساهيل المحاضره تبعا لتحريم الخمر لخلاقه علم احاطها نجاح حراما بطابع تحريم كامل ان هيثت التحريم المالوي بحرمه تحريم كامل بالشهاده الذي الله يك ان انها تدعو الى الشر الذنب شن ضاقية بشربة شرابة فإن اللذة الحاصلة بها يكافت كل مملخان وإن اللذة الحاصلة الموسيقين المدامير بحار تكبيري مللتها بالعلة الحارمة الخامل. قريب الخاملة إيه؟ دو النقطة حاصلة قريب العدد بشرب الخاملة میگه صحابه هنوز به سمت شمرخرد شمر خورد عمل قریب الان بودند تا که شراب را ترک کرده بودند. چون که مجاز سلطان به شرق مجاز سلطان با شرب زیر نشود وقتی خدا فقط یک اگر تو نمی زدن اونم ازش نمی اوماد. اونم میگه. بعدا میگه دیگر از دیار ایران و سرزمین گان چه با شراب یاری بس فكره صرف الذات الشده ما ما عرفش الشركه اذا صار فيها فهو سبب للفتن لما حصل هناك جلسه عشان نتاجتمع عليها لما ان صار من عبد انزفني فيمنع من التشدد لان ما تشدد هذا من خوف منه بل هذه لعله ان نقول بترك السنه مهما صارت شعارا لاهل البدع خوفا من التشددين چینی معنا معنا راتونی ہے بنا جب جملہ جاری کی یہاں پر الگ طریقے سے می گزرا سن بازار کا ہر بندی وقت وصول رہی درست ہے اولا بحث یہ کہ علت بعد مشخص ہوเช کی گفتے ہوئے در شرط علت مشخص ہوเช علت یہ بحث منظمتی ہے عیلت یک بس موظفیتی هست که لازم بیست مابلیترات اصباب و حکمت هامو بدونیم بلی عیلت مشخص نیست مثلا به فرز مثال من یک مثالی بدون میدنم فمن که علمین کن مریضان او علا کفرین تعذتون من ایام اخر که ای که در سفره یا مریض باشه ماه رمزون روزهایی برد درمازون هر وقت در سفرون هر وقت خوب شد روزه میگیرد سفر مسافرته الندشیره گفتن یا حکمتش چیه گفتن حکمتش اینه که سخت بر مصافر این که روزه بگیره در نتیجه شر اومده تکلیفات رو کاربرد بده تا این که چی سخت پرسنا گذار تا نتیجه روزه‌شو بخوره اتفاقی پاییده شدن خب این اسبابه این حکمت‌هاس که ما برداشت میکنیم مشقت و سختی ما برداشت میکنیم ولی کن آیا مدار حکم روی علت یا روی سبب اللذی که مخفی هست مثلا بهت از کارگر ای ما داریم زحمت می کشه کار می کنه مشقت روش هست آیا قیاسه بر اون شخصی که قیاسه بر اون شخصی که متافر هست چون اونجا گفتیم مشقت هست آیا قیاسه بر اون درسته که ما بگیم اون کارگرم حق روزش بخاره به اجماع عممت خیر چرا؟ علت سفر چون علت در تفر مشقت نیست اون اسباره و اون حقمت چون علت بس به منذبه نست من کان منكم على سفر فمن كان منكم مريضا او على سفر هل مسافرت بود بس سفر بس منزدیه و همیشه احکام ما متق میبینید در بحث علت ها همیشه احکام احکام اشار صاد میگونه احکام منزدیه در اساس علت ها نمیونده نه بر اساس حکمت ها و اسباب هایی که ما برداشت میکنید بس لذت کسی نکرد در بحث لزمی لازم اش نیست کسی که غمگین نشه نتیجه گیره این بحث یک بحث که ما بین علت ها در اصول یک بین علت و اسباب و شکمت ها طرف بذاریم شاید ما اسباب یک چیز را درد بکنیم ولی که علت را نبیتونیم درد بکنیم همیشه ما نبیتونیم درد بکنیم باید علت هم درد بکنیم که یکی بودیم قیاس بگیریم این یکی مطلب مطلب بعدی که بسون اشاره کردن بحث گفتار امام غذالی که گفتن این اشیا چون با هم مقارنه شدن در متیجه حرام شدن چون مقارنه با هم شدن و بلکش در حدیث اون حدیث اومده خمر و مشروع و عبریشم و زنا را خلال میکنن آیا چون اینها با هم در یک جا اومده در یک حدیث آیا سبب شرمته یا این که هر کدوم از اینها چکل مستقل خودشو داره یعنی مشروع به ذات خودش حرامه عبریشم به ذات خودش حرامه پوشدن عبریشم مشروع کردن zina کردن به ذات خودش حرامه یعنی اینکه اگر با هم باشن حرام هیچ کس از امه نگفته که اگه اینو با هم انجام بدن حرام منفصله هم حرام نیستن ما البته وقتی میگیم در اد و اصول فقه در خصوصی که بعیدا تعریف در اون آمده چیزهای مباح و حرام با هم ذکر نمیشوند غیر ممکنه كده اینجا واهنگ اومده باشه واهنگ مباح باشه بقیه حرام باشه و این, این تابع این واهنگ تابع غیر حرام ما باشه ذيرا نبو يا انصبرت انجام دادن کار با باید تعهد و توفیق بشه والله پسا در حدی که دوسته شما اگر زنا کردی و آبردی ادا میبینید اگر زنا کردی و آبردی ادا میبینید آیا آبردی دارید که زنا کردن بعد این میاد که السدره مشبین اي الذين لا يتكون معهم مع اله اله الله الا اخر ولا يحسنون الناس الذي حرم الله الا به ولا يذون ذال این آیه و چیزی که من آوردم اینجا دلیل از این که هر کدوم از این که آقا به تنهایی بد هست که احجام زهنده ای آن مستحق اوکوفت از هر چندی ایز و خناب با هم جمع نشده هند این این چیلی که قلعه ها در حتی کتاب هایی رتید فکرش اشاره می کنند روزه در رسول فقر کتاب تبسیقه یا گسطف شیرازی احکام رسول ایمان باجی و نصرمانی و دیگر که در این کبلوم می بینید پس واضحه که حک و اگر حرام میگه که از اینا هیچ موقع با هم در یک جا جمع نمیشدم پس هر کدوم از این موقع هر کدوم از این مسائل به زاد خودش حرام مشروع به زاد خودش حرام نوشیده نردی نمفرشی زنا کردن به زاد خودش حرام هر کدوم ها پسیده خودش این در فاسق دوتا شماراتی که شهر مطلق کردن شکر بودا خیلی نشکران ها هست مسائل دیمونتر خیلی رو برق چون ما بخص رو شروع شد با اسپیدار سمس و سمس و بعدم که تمام شدون رو در حالت وقتی بخص رو ببرم بیدیم تر اسپیدار از احادیست خورمت در جوید فقط وقتی بطور رو در احادیز دیدارم شده در حالتی خود احادی زیدارم شکل مثلا آن این مطلبی که ما داشتیم که از ماموردالی زید کردن در حالتی خود در حالتی خود خود همین حدیثه که این احثار مستهلن کروا و الحریره و المعذ و الخام اینها مقارنه با هم شدن و اینها در این عقوبه در این اساس و این مسائلی که حدافی رام قضه حل کرد موضوعی بشه ما حدیث به حدیث به ترجمه خیلی عملی باشه عجباً بقى قرارندی بش یک قراری می گیریم الای قراری می گیریم کل کلمه فقها من غزالی به خاطر که اصلا چیزی بشه تکرار آرم احادیث بش فرداخته بش چی مشکلی داره حدیث بخاری مشکلی سر کجا اطلاعات اسناد از لحاظ متن اعتقادی که ما قبول داریم صحیحین رسول الله مدام قبول داریم که هر ضربه با تجربه ما بشه فقط فرداخته به خود احادیث بلکه می بحث اضمام بلکه می بحث تعقل و طهارت اگر مجال باشه فرصت بشه سعی بشه فردا صافن متفکر باشه تا به نتیجه برسه چون برای نتیجه え، چون ماهای مختلفی در دستور داشته، اولین ظاهرتون اینه که تو اصل موضوعتون خوبتون نیست. یه در اسلام، مثلا اون چیزی که دارید می‌دونید از جایی، فقط تو این کارستون، اگر مسیحمون قرار این قدر در این قدرداری ها قرار نگیره. بنابراین در واقع Reklaisen 순ung nizli её býstiskadish. Akartžisisse të suskключere qื่ type kažpris euskni euskri të umwojINESh dieselnipo keek kom Orajn Ιur invention yuskë nesil nesiletidoj k ouiësikri. Par southeast,íll抱osti o úạ torii euskri therixe krytaë nesilat që fq mwen nesil beraisi kom uërją okdoj. Ospris keekuvoam ju her nesiletnil s'batu i dupërre اور سید صاحب ہیں وہ جو وہاں تھا وہ فضائل کے اوپر بہت بحث کر رہا ہے۔ نظر میں بھی سوچتا ہے کہ اگر میں تو مثلا جو دے کے سر یہ کہ میں جنوں سے دعائے تروف سازانہ صبح نہیں کر رہا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے فضل و کرم سے تعلقاتوں کا ختم ہو جائے۔ میں خواہش نہیں کرتا کہ ولی بکران کہ اگر میں اس وقت کہ دار میں فلاں حساب پڑا تھا میں ہوا نہیں چھ ادرس ہوتا۔ ata është na vend ka dhe shoqëris bash e ana punat e të cilat janë të dorëzuara në qendrën e qytetit dhe duhet të qarkojmë këto gjëra që më ndërkaqë. Sa i dorëna është? Pastaj të kishimo sheh kohë të ndalë, madje edhe sheh ndal. Hapat të të javë do të bëhet paso ka një ndarje të fundit e vizionit e ardhirë qytetar ku është dhënë korona të tërë. Si bëhet të bëhet ndarja këto mandataire? Ne vështarinë do të na pashtatë. Ba, tek rëndë, faleminderit. Shumë ide që tani pas ulë dalta të bëhet tasnia, vetë tasni, pastë taso, ta kryej këto pyetje dhe të marr përgjigje. من مشکل ائضاء حوازیه بهش میشد اعتراضات اگر بر احادیث است اگر بهش اعتراضات اکنون به حدیث امام بخاری است که از راوی اسناد و متنش و یعنی علما صداق دارن و کتاب ها نوشته شده اساتید نوشتن علمای بزرگی که در رسانه ها هستن ما میشنویم در بهتره که ما ببین این حدیث رو طرف لازم چی گفتن اون ها در مورد این حق با کدوم طرفه خب اصلا چه رسنده حدیث امام بخاری اگر دوست بکنیم فدر حقیقت طب به خداوند دستورات کردن اول چه در بحث اینکه البته طب به فلسفه و به اینکه اونم فلسفه و ساختن اون تو انسان بود خصوصا ان شاء الله تعالی درست ما اینکه این بحث خارج متخصصی است من ما الا جوني الها ما من حله حله و حکمتهم من حسم شد یعنی اینکه خداوند و خداوند و خداوند به تدبیر و فرمان امر می‌کنه اینکه الله با هیچ از مقصدیات تدبیرش اینه که انسان در الوهای فرمان خداوند علت‌های و عوامل خداوند چی رو بذارن برقرار باشه این چه علت نداره نمی‌شود علت نداره علت داره حاضر هر چه علت نداره حکمت داره یعنی ما ما در حال تحلیل اشیاء شدید مثلا در بحث ابزار اشیاء تعین معقولات تحلیل است این گویات معقولات معنا باشه اگر معقولات معنا باشه ندوز به لا مضارع به غیر حکی مناسب ندوز تعریف گویات معقولات معنا باشه خب در بحث dhe zakr e dhëna të dhëna e hizmete maza son la ela te hizmete maza la dimi qe qe hizmete tarife qe hizmete tarife qe vetta zamane qe ela te hizmete maza malum nase por aral ha ne te ne bere besedeti pasi qe haviz me keni hatman qe keni veti ela te tarife qe hizmete tarife moshaqati jese te shqi hizmete shqi jaza jaza ne di turu طوری جلو فریضه حضرت امام صادق سلام الله علیه، حضرت آیت الله، این تئوریه که سیستم فلسفی ابن سینا بر اساسش متأسس می‌شه، دارید که شهادت دادن به جواب خوب باشه. یک بحث دیگه هم هست. بحث اصولی هست. دیوس ما داریم همونطوری که روی تابلوی ببینید ارکان فقهی برای هر فرقه سر کام داره. یک اصل، دو فرع، سه فوق، چهار علت یا علت تحریری. مثلا در فقه مشهور داریم احل. مسیر پیر را اینطوریه فرمول است. شغل اصلیه، شغل شرع اصلیه. چی؟ حرام بودن طعم. حالا طهر، آنچه که درس، آنچه حرام بودن، مثلو مس کردن، كل موثیرا حلال. بعد از نتیج پیر ریساحت و مس بکنه، حلاله میشه. این بحث اصولی است. و هر کدوم از این ارکان برای خودش شرایطی داره. مثلا مثلا مقصده بنده‌گومشا می‌خوین؟ معنی حکم عکن معقول باشه. به این صورت بتونید تشقیق دین که مقصد حکم شر بر آن چی بوده. یعنی باید شما بتونید درک بکنید. مثلا به خاطر مشروب چرا حرام شده؟ مست کننده بودن باشه. که سبب است در واقع شروع به درک انسان در آن حالت اسلام ورده به تباهی و زوال و فساد و دیگر چه چیزا میشه. حالا یک مسئله قدی در کنار هست. اگر من نتونید درک بکنید معفولت المعنى نباشه نمارسه با در فروکو انجام بدیم چرا در اشتوجود انجام بدیم؟ معفولت المعنى نباشه؟ ادادات، ادادات، ادادات. ما گفتیم اقادته نه سریع شد در فرمتش وقتی که حرام شد در جمله عاداد یه سب آداد وقتی که نه سریع شد و بقاطنه همین من گفتم شما اول بپردادید به حدیث رای بخاری مشکل برش وارد بکنید تا این که بپردادید به بقیه مسائل ما از داریم در نمیتونیم بکر زنیم از قضی این اصل است و به درسات بریم به بخش آزادی که مسئلهی که بحث قلعه فقیه هست مؤهد در این درسات برخورمتش و لازم هم می کن این چیزی که شرح حرام می کنه معقولت المعنى باشد، لازم نیست و این مسئله اتفاقه برد در نظر ارنامائی رسول و در محث رسول که می شه، مثلا بخش بحث علت در این جسلوت علت، بند دوم الذات وقت بس منزّه باشه یعنی در اختلاف اشخاص و حالات و مکان متقابل نباشه تمام صفات در مباعد شدن انسانی در رمضان که بوده تا حقیقت منزّه تو معین داره با اختلاف اشکال و حالات و مقال متفاوتی اما مشقت و سختی حقیقتی متفاوت دارد و سختی سفر در تابستان همانند دلزانی ولی که شرم آمده به مشقت در داخل خیر و سختی سفر با عدم آنکه ماشینی در نتیجه این علت محدود است علما مجادله را که علما در صحیح بودن تعلیل احکام به اوصاف ظاهر مرزات شامل احتمال حکمت و فلسفه اتمام دارند باید یک واسطه مندل باشد اگر نبود ما نمیتونیم قیاس بگیریم الذنب ذنب كل، مثلا الذنب كل مشكله حرام ما مثلي، ملينا دار سفر؟ ما له دينه كيف تيجي تجي ديجان برتقال. نمتني شو معقوله بمعنى نقريه ما، شراشر؟ قلت له مسافر باهي، حكمتش ما بدري، سببش ما بدري يفتحيها. ملي حتى بالمو مشخصهش نشده. ده نفس ما له دينه باليوم دي. ان شاء الله السفرات e' në bakятно j�ë të në kartu, o n'espo thune, kja eit gin unconditional sal fënër? në nie éto, n'espo thそして j�ë të një. ça n'ang fronts d pada egðan shku pap tëshu, dap dhe ahtroep komant non vipurit ke të shkiim unless ki, bad me, wedgi kutub hugh dysu hen對啊 disk trumis av? حالی بن گفت که قطعی ترین اخباری که ما داریم در اخباری که بعد از نظر تدوین متأخر چه اطلاعاتی فقط ما داریم من خیلی زحمت کشیدم خیلی طول دادم یک دونه حدیث از ثمره تایم الممالک در مورد حالت وصلت بیان نکردم در صحیحه مسلم و تا خیلی زحمت کشیدم یک دونه در مورد تحقیق مشهوری تو سی مسلم به پا نکرد. شیخ بخاری امام بخاری رحمت الله علیه تنها یک از آنهاست. و اون حدیث امام بخاری در ثورات علی آورده بحثی خاصی. شما در تصوف و دیدگاهات تنبی بخاری امام بخاری چهار دست امام بخاری هم مؤثث هم بدیع است. هم دکتره، هم دادوست هست در حالی که امام مسلم اطلاف بندی کتابش، توسط امام نبنی اندام شده هست امام بخاری، به قابل اون قریبی، فرخیه، خیلی قدیل که داشته اومده کتابش رو اطلاف بندی گرده و مقایی که به ندرش می اومده، زید کرده رقیه و حادیث مربوط را آورده و میریدی امام بخاری ما داری یک حدیث را در چندین بار بگونی کنه یه بکنه حادیث مکرده حالا توی سهن بخاری ما هیچ چکرمیم و با هیچ باقی نداریم که امام بخاری گفته داشه این باق در مورد تحریم بناست یا تحریم منابضه این حدیث این رو در چه باب آقورده؟ یشرفونت خبره یشرفون آل و ایسما ولی با این حدیث رو در بیر این باب آقورده و با این کلب ناظره بشرف عربی حضورده جارید اینجا شده حدیث معلق با عرض در حدیث معلق این هست در حدیث معلق این هست دریفه هره شما me thom products чис du mëd buten normal sesohn ma af店 me thom u në në e4 Labor אח ilfi Buhari wirine hot heart q u në fi akht bid në svi Biz politamand yuf ma të nhepela Ma la mënemi nge ende darshan karta hu ki is tarah hota hai main nahi main cheez nahi banata kisi tarah ilm ke darshan doctor hadisi har dam kar de do main kuch hadisi darbar se tarikh se nahi dalte hum sab hain ha hum sab hain sahi muslim hain sahi malik hain har amal Imam Ahmad (rah) ke badal bi tarah se sayyid ul-ishqon Imam Imam Bukhari aur Imam Der muslim dar amun awail tan semu dunya okhra. Allah. Poqai agar vaqat tin mas'ale fa dar in fahim ma'ad. Ba tabi'at dini bood. Joza aqiyat dini bood. Daraki isha baqna. Yani ke joza aqiyat nist ah tas mihte qala da Einbethon pas and mendele qey Keliyak tueh nthe foretangata hinit Emblogine tas balta le Lake des aynes Ketest masked But ndannah Sroja margen Var töjaению sat itakna tueh fr choices, Tishiteqqqa nishy lake, tuk Next eggs ameqqqqd? никohi suanyam tria mer Goodineen tukha tursul? tukha turehjer nishapkin? tukha eqqqd? Tsh о jent Hassan tukha tukha tsu meqqqd? Tsh натukhat tukha tsu? tukha tukhth iqj? eqqd ya meqqqd? Tshq. Fshshshshshshshsh باید اتنی باید نموزه یعنی توقب و خیلیه بخاری چیز بنابرا تحریبی متغیمه ی مماظرد ندود این رو مثال عربي میتکرد درد و جالبه عربي ها درد برای مواله سکرد سوال اینجا آشد شرا مواله سکرد؟ ها اما خیزارت براغوی بخاری دیارد که بخاری به این دلیل و به این دلیل بالدلی و به این دلیل و به این دلیل و به این دلیم مواله سکردی د akli muzahaba ve bu gaye biçer. Çünkü Buhari kendi münaseb, vatan bir münalasa, şerai ve nelsene tehhis dânadır. Bununla beraber çıkar kabul maddeler geldi. Hara her diğer devamı hesabı, yabanı cemediye mana ki bu bu çıktı diğer bir surete, surete müteassıl bir gider başlar. Yine bu Buhari müteassılleşmiş. Niye mesela Buhari? Belki یہ جب لے رہے ہیں ہر حدیث ابو عبداللہ نہیں شراح حدیث نہیں و امام بخاری علاوہ در پر تمہارا فیشن یہ ہے کہ علل موالحات بخاری علاوہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو تمام کتابیں روايات کا ذکر ہے جو اپ نے جاری ہے وہ جیسے اعلی روايات کا یہ لگونی کوئی اجا بنا نہ کوئی کوئی فرض یعنی كل بلا شاں ہونا توجی میکن چه دیگر احادیث بخاری صحیحات بخاری نه ها اما جان ثلاثه و داش قسمت معذرف و من ببین حدیث معذرف صحیح حتما یعنی خانه جمالت نہیں پسند ہر کہیں نہیں نعم ہر کہیں نہیں نعم اصلا حدیث معذرف نہ رسولی حدیث یعنی حدیث صحیح کی گنج بخاری سنا ہے رسول اللہ غیر یہ پرہ دامن تس مطلب نہیں کوئی اور گرزو سجدہ ایک کو نظر ٹھیک ہے چند دقش راست؟ پنج، پنج، پنج، شیز داریده خب نگاه رو کنید یک مسئله است آیا احکام چاریف مختصر شده در معطا ایمان مالک یا مسلم؟ یعنی حدیث بیانفر مختصر ایمان مسلم بود یا ایمان مالک؟ اگر ابود آوید رو باید کرد، ابن ماجر رو باید کرد، ما داشو نپذیری، ما ما حد رو باید کرد، داشو نپذیری، این دلیمیست یک هر کسی اون چیزی که امر بهش تریده بهش عمل می‌کنه ما شافی خودش میگه این ما محمد تو جایی رفت که من نرفتم هر دو احادیث بغداد و شام شنیدی به من تو بگو چون من نرفتم اونجاها و من اعلام بکنم من نرفتم پس شوخی ان اینه بیش نراست بیش نراستیده نرفت. برشون حدیث این یک دو من اینی که بخاری چرا نه ماده باسنتی بکنه نه یک حدیث امام بخاری هر دوری 200 تا رو حدیث داره بعضی جا 7600 تا آیا از همه احادیث استنباط کرده خیر امام بخاری کل استنباطاتش 2000 تا شاید بیشتر نباشه 2000 تا 3000 تا باب بیش از 8500 مطلب میشه شو را نکرد از مسائل مسائل فقهی یک حدیث شاید 10 تا خوب نتیجه گزارش باشه امام بخاری مکلفه که همه اونها رو بیاره نخیل یکی از مطالب را با پوش میداره حدیث زید می کنه این دو سه این که گفته شده این حدیث معلقه چطور ما بیان بگیم حدیث معلقه حدیث معلق ازا تعریفه چیه حدیث معلق در اطلاح محدثی وحثی که طرف از یک شخصی ندیده باشه اطناد و بین خودش و امروی حض بکنه حدیث آبید باشه یعنی بفرد من این سر یک شخص بالای سرم باشه اون شخص رو بردارم ارتباطی با سرخ ندارم رابطه این ندارم این میشه معلق از طرف چی؟ از طرف بالا از طرف خود راه این معلقه حالا شما اگر نگاه کتونیم همونطور ببینیم امام بخاری هشام نعمار شید کشه و قبل از بار دوی سده هم باشه مراقب دارشه و با لبس حزتنا و حزتنی با قالم روایت کرده و امام ببینه کسیر در بعض حسیست النمولقه المختصر علوم الحديث نيگه این حديث حديث معتبر متفق و امام بخاری چون این روایت را از طریق عرض و مناوله شنیده این صيغه به کار برده است یعنی قال گفت نه قد حدثنا و حدثني حدث عرض مناوله لكي یعنی, یعنی امام بخاری کتاب به چشم داشت اما را بگیره چه شيخش بکنه این صيغه قالت غیر از اینکه چهارمی است اینکه امام بخاری مگه مدلسه بفرض هم بگیم این قاله دلالت بر تدریس داشته باشه، این قاله مثل عرم آیا این مخالی جورد ما دلیل سینه که بگیم از اینجا عرض قبول نمیکنیم در نجیه قاله دلالت بر این داره که این قطاع حاصل جده خیلی شیخ بشته چون چون میگید که منطقه؟ به درمه یک قاله، این قاله، الفاظ ادا نیست، قاله، الفاظ ادا، سعن، الفاظ ادا، حضرتنا و اطبرانی، اینجا در سلحات رو بکنیم اما بحث تنجمی و اونم بحث معلقات این حدیث معلق ما به ساقم قبل بگیریم معلق شنو يوم معلق مجزومه يوم عدالت غیر مجزومه یعنی اینکه امام بخاری دیگه قال مجزومه یعنی بچی حدیثی بیان علو می ابن حجر علو ابن كثير علو ابن حجر علو ابن طلحه علو نوری همه میگه وقتی که مجزوم باشه با صيغه مجزوم دلالت بر این داره که پیش خودمون بخاری صحیح گون گفت قال گفت هدفش خود اش تهی نبود نمیگفت قال گفت قيله به خاطر همین اینجا مثلا نقایدا بجه گفتاره افراد كتير تي ميگه ميگه هرگاه صيغه مجنون باشه دغدغه بر اين داره, غیر مجزوم بر این داره غیر كه اون حديث نزد البخاري صحيح نيست مگر غير مجنون باشه مثل قيله بر رويا دللا تركيد داره كيج غير مجنونه منو ميتونيد بگين كه امام بخاري كيشو حريص نيست بگه آلا بهتره ما قبول نكنيم بهتره ما قبول نكنيم او يا من احسن بشعاعي ما محلیتی که از بخاری مسلم یا از مواطع ممالک بگیریم پس بقیه علمه چرا جلکنده نویشته؟ چرا سرن ام بلوی نویشته شده؟ چرا سرن ابن ماجه نویشته شده؟ قواتون میبینی الان مثلا بردار کمین حدیث امام بخاری از تشاب نعمان رواید بگیره بلند زقاله ولی که ما 5 آنمي ديال بلغزت حدثنا و حدثني و أكبرنا و أكبرين الواد يكون مثل السيد عبدالله تعطان كتب في صحيحة يعني الحبار ربما يكون على طريقه يا حسن بن طفيان كي بحق الواد يكون يكون صحيحة كتبالون الواد يكون و محمد النيتي همين راه نقول عمال مكلفة باية تحب در بخاري و باية تحب در بخاري تحسيح نقول خير ما مكلف نستي ولكن مهمة تقادلين كمان بخاري هذا الحديث راه مسند و بني امه اجتماع دار دخلت انه امته الحديث راه دليل روحتها العلماء ما قبلوا هذا الحديث هذا اقتضى جنا فتره دخل المجلس مولد الطوله بقينا بك تكون حديث المتفق عليه البخاري في مثل محل ذلك انك حرفت ما من حديث دخلت شو هذولك انك اما ان حدد انك ادرنا حد كتي اطرنا تلميذنا مشوكت Sana ketë vëti Imam Tirmizani nuk më shinoftë. Këpërsia e qiyasrat la mutlaqa qabul la qiyasrat nuk kune. Kur duhet të thotë enna qablatullah hadith madhe boshtin hadith muttasil. Hadith muttasil ve isnadish mifti xurshidan vazeh. Bas. Allahu akbar. Dashur të thotë ju se در خورو دیدیم که برودم که آیا همه عبادیش باید باید در بطاری و مستقر و بطایی واقعی باشه من دیدم اگر این مسئله یک مسئله معلوم مدردین رو در دروغه است که باید باشه باشه روحی جمعه باشه اگر مسئله یکی اونقدر واضعه اونقدر روشنه شرمتش اونقدر واضعه که جلد که حسیات شدیه است باید باشه این باید باشه faqani motori mali shapija duke qenë ato ka doktor, po tani nuk ka dorë të të shojë poshtë, jo të na. Ma trejë gojën tani. Je në Buhari, shoqëri 2000 ta unvan ajo. Në mujëri 2000 ta unvan nuk qej. Çka ti jorrde? Shoqëri çka nai jorrde? Ona çka nai jorrde? Ustëti i këtare dhe xherat, allahu hadis sa'a. Ai ka mëne, pa mëne. که غنابان انسان را قراده و حناظیر بی گنابه دیگونه اونها را چیلی ندفترد؟ نه اینا را باقر این حضر محمد چون بصرای کفره کفر نیست؟ کی گفته کفره؟ یکی در حضر این کاری انجاز داده که در حضر کفر جو غنابه در حضر در حضر این از غنابه در حضر آدم با غناب کفر این چه کفره؟ حالا به هر حال یعنی غناب خیلیدی بزرگی متحد شده bona bona e që i bodur qara qara e bodur e që i bodur qara bodur që bodara qara mazhe qalaq qalaq qalaq kujtida masale një qara bodurje në masale yani jotë qatiat e sharjja e jotë qatiat e sharjja është qatiat qatiat vetë mëtere saqer mëtere e iqma qalaq na bona jë në rasti të informat moshe iqma ha bële ha qati që moshe e qalaq qalaq na نمیشه. چرا, نمیشه؟ نمیشه. چرا نمیشه چرا نمیشه چرا نمیشه یاد بخص این که آیا هر کسی منکر اجماع خود علامه عبدالتری و محمد ایدرکتان من با این فقر میگه که نعمی کنه از امام حرمی این که منکر اجماع کافره چون این که از دلیشن را رد کرده ولی که این قضا عدله زد می کنه که این به اطلاق اشبا سر می کنه لازمه یک شخصی که یک چیز را حلال می کنه یا منکر یک چیز هست این نیست که کافره چرا؟ چون خداقن در حدیث صحیح که در صحیح بخاری صحیح مسلم بر این که شخص در حفظی که اشتباه بکنه و بیاد این حکم ایرا صادر بکنه اون ما شخص معاخذه نیست و خدا بدن دعاهایی که مؤمنان میکنند و در آخر سوریه بقیه اومده استجابه که بد بنده تو اخذ ما این نسینه و افطانه در زد اشتواه شخص اشتواه بکنه حلاب بدون این چیزی که خدا حرام کرده مثلا به فرق مشروع کنه او چیزی که در رفایتها اومده در بحث اینکه ادهی از قهار مشروع کردن تعبید کردن آیات قرآن برگامرم نخطاب بهش رو نامه میبیسه که چرا مشروع کردی؟ برای نگه ما تحقیل کردیم، فکر تحقیلش که ندادم چرا؟ چون تحقیل داشت در صورت تحقیل هموندر به شما میگیم مثلا مثلا یک مفاهیمی هست، زرداشت هایی هست که این حدیث معلقه تحقیلاته، اشتباهاته اگر که اشتباهات بر طرف بشه، حدیث ثابت بشه، مثلا بلفرد من الان اگر بگم موسیقی حرام کافرم چرا؟ چون از لحاظ حدیثی، یقین دارم که حدیث صحی یقیناً البته کوسی درم ثابت است من اگر منکر باشم بله ولی اینکه اگر شخصی با شبهه ای با تعبیری و مثلا لشکافی نیست شخص صحیح است Osteq tuk ki ha visi alshadies? Bet dihÖri ten pozita duke faze say oshadies? Svisi, sėra ş في fulhi resource ha vartu Aí un cadhis tie emperor, Undyras e ma pasensi y te mercado In littinith e ma p Eitheris یه نمونه خیلی زیاد باشه چه وقتی که معلق یعنی ترث واسطه نباشه معلق وقتی میتونیم بگیم ترابط بین این انقطاع باشه ترث با دیگری منافات نکرده باشه بیا یه حالتی مثلا مثلا اسناد از طرف خودش حل شده این بهش مکان معلق ولی شخص از شیخ خود شروع کرد دیگه چه حاله گفته نمی‌شه از شیخ خود شروع کرد می‌گویند شاید بین اینو با شیخ در این حدیث مستقیما رو مثلا برعکس همون گفتید به فاده روخ مدت ایت امام بخاری بصیره جرم آورده فانا دایره که جانو اگر قسیقه جذبیات اگر قسیقه جذبیات اضل ما بخوریم متکفل به صحتشه غیر از این این حدیث چرا بخدم خلاصه کردن ازای بطاری ما که همین فردا من بطاری هست که روایت کرده دیگر ائمه نیست ما که قاعده سریکه شوم رو روایت شده که ما مشکل داریم شما ببینید خودت اینجا ما این مزار دارید از اینجا از عمر و ماله از عبدالرحمن بنقه از عقیه ابن جابر سدقه هشام میاد بران بخاری خب میبینید همین حدیث از عبدالرحمن عمال عمال بنقه ابن جابر بشرب رو بکر اینجا چکار میکنید با این سنظری که سدقه از بشرب, بشرب رو بکر که امام بخود جثه رو باید میکنه مگرم باید فقط دارید حشام رو باید شده مگرم رو باید مگرد دیگر علمان نمیدن که رو باید بکنند میبینید شما در اون مرحله از نجابر که بعد به درسته بیاند بعد به شامیان از همه این نجابر هم کسی دیگه هم شدیدی وان هم بشه حالا من یک سآلی دیارم باز اینه ببینید افیادم امام و بخواری شما میگید چیز حدود به دو ساعت که همان بذاشته چیزی بنابرای تحریم موسیقی نداشته و اگر تحریم موسیقی واقعا تحریم موسیقی اوقات جزو مسلمات شرکی بوده یعنی اگر جزو مسلمات شرکی باشه دماغ بمایی درخواد این رو حتی اطلاً یه برو کوچکی، بله خرید کوچکی براش نیداشته این روی که نداشته، دارد که اصل یه رو گذاشته اصل یه رو گذاشته که ما داریم در بخن بابو da qodet wala budi migjan Muhammadin dakhala alayya ani bas alhumdulillah inga khala alayya rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahendi tawiyatat tania ani in bukhari yani da nehda aqal cha te te mikone in hadith bukhari khawarda barakah hayma allah haye tafaqat ma bukhari barakah hadith da rozi E, i luaj të tjerë po t'i shohmë ato po shohë jallë këtu çka më çëmë të nisë ama ndaj. E, i falem. Halisa t'njoh hastë. Falem. طب. الحرب بدرى يوم العيد الحرب اجتراشات الحرب بدرى يوم العيد ذا قبل انتهاء الجمعة ذا قبل الجمعة صاد الحرب بدرى يوم العيد الحرب ميدان شرس هر آقایی نیزه ی حرشیه به درست هم سفر دارم این تو این باب رو برده سیاهتی یعنی از این برداشت میشه هم که اینا به بخاری بگیم چیز متحده با حضرت کن داشته با حضرت کن داشته و این چه مابونه دیگه درسته بلگه کارچی کن برم تیافر صدرمه علیه وسلم بعدم داخل شد برم زمان دو کنیش دو دختر Duxdar la che, duxdar jawah, jari am az, baje biam ka, budur. In jariya kan duxdar niya. Alam yakunna. Bi dhanab wa'q, khana'ib wa'q, baqas niya chayid. Fattaja 'ala al-karash, sallallahu alayhi wa sallam, ruvi taraf la ta'lu hadi, wa hawala wajhahu bi surra nasra' da. Azzaq al-dakhil shu tadhaha 'alayhi marra nahiid. فقال مسمار الشيطان عند ربي صلى الله عليه وسلم او يوم مسمار الشيطان نبي الشيطان دعنا زبا يعدى صلى الله عليه وسلم فأخامت بنفسه ويعدى صلى الله عليه وسلم وقلت يجب انها ربي وزارة ملشون فرح اندازی که غاقل شده یا اندازی ابو بعد غاقل شده یعنی تلت گرس و نید و نسمنتیه رامسو و ماملی که میشکوره داره شده از دختره از کمتن دید افرادتا وقتا دید یعنی باید میشکمتن دید دید بعد فرحان و یوم وعیدم لدعب سودان و بندرته و الحرب و روز دیگه این بود که سودان یعنی حبشی هست یا آلی حبشین با نیده و اتفاد با دیل جمعه حالا وقت کجا بوده؟ تو محصول دلاندر و اگر این ها سال تو بگید یا خودم از دلم رستار کردن یا خودش پرس رو تشکریم نتنظوری؟ دل بخواب این آقا کنید؟ تا خود کنم دلاندر دلم دلان میخواب؟ Sa'ad al-Salam qamut e ke Omar ibn Farwah ma ro penanat gozati go sefer bas e te la chane ru chane az nebe dusat go huma yahulun dunakum ya bani aqtab dunakum ya kalamin tashrihiyan ha hayy ma shada ban halatayn bain aqtab in matal dimaliya كاملين سياهاته جسد حتى إذا من الضغطين حسناً قال أثبكاً فنقر فيه قلت نعم قلتاً ثالثاً فنقر فيه مطبول هلو ببنين؟ ده موضوع الحديث بقى من أنك این چیز خیامدار خلاقی اینکه ابو بارد اومده اوم المومنین رو نعر کردن و ندیب داده این در اینکه فرقیمه که زهن ابو بارد در عاصل موسیقی عرام بوده چون اینو می دونسته چون اینو می دونسته ابو بارد اشوار گرده از دنارو نهد دلده اما اینه حساب میگیم از اینکه شوار دمار خوف بوده گفته شلو نکوی تفاهمه رفتون بدا از اینه از اینه از اینه مانه دی این برشت شما از خوشو آوردید چی؟ چون حرام بوده آن بگیم، تزرون چیز گنار غذابی پر بود چون همیشه زناب و شراب و زناب همرای این بوده این زنیه از بوده جناب زناب به این همه حرامه، تا خوشه نکنید این کار رو بعد را بردن کن که نه این کار رو زعف ما برشو کن، روزی دیره یعنی یهود و همه سیبیر ناخص هست تا زنی یهود بدنم که نزیر ما چ کار داردیم مثلا گسترش هست گسترش هست و بر میگه حالا برد نمیدن این که همول مومنی به ایها نگاه می کرده و برد نمید همول مومنی کوچک بوده چون کوچک بوده اشفر من داره از نمی کوچک دختر کوچک به مرز دیوان اقرام این نظر میگه که Poroj dast nige ke kon madde taase chi ju poroj dastuni verdai taqam bar verdai mushal va in da'ir ba in ke bad az hisab bude hamin ta oydimi sa poroj dastuni kharab kerd rooj va li javab de dad pyetë në mbarë. Kështu që është mbarë. Atëherë, kështu që të vendosë, të shoqërohet mbarë. Kështu që mbarë. Në ai takë ai jeni, në të mbarë të jeni, të shefë të mbarë të jeni. Ëh, takëta asojë të jeni, të shefë po vë juën opërtunë se të dalësh. Ëh, janë direktorë, mbarë votë të kë. های صحیحان، یقระ از را می تش Здесь YAMO Jezid ام ورحوم امدرس врائhl اما یز اطلاuum بخرارت آنه یک فرمت کنなく این ش butica را سorenک دوید کنون زیرت ا statistای نیند مشکل ما از رو داشته یه shellate te digjyer kubenis ne ajande jahir pasore nota 11 bëhet ekatë te dhëre te digjyer zona te saktë ndaj te sori yezvat takmir bëhet ekatë te dhëre te digjyer deri saoz dhe ale machine te vërgjerdan machine te shkëdhet te shkëdhet machine تنان نوحو انجاز داریم است. یعنی نیکسر دیگه نیکسر دیگه خب بفردشه بودن با خود حدیثه تو رو می نشه همین پرست ها همین وقت ها تراست داره ما ما حقیقتش گفتیم از حدیث رایی می کنیم رو حدیث دیگه حدیث بخاری بوده برستیم رو حدیث دیگه از حدیث حدیث مون بخاری یکی بکنه هم حدیث. باید یک مقدمه بکنه پیراموزن هم پیرامون هم حدیث هرچند که بواسطه یک سری مسائل هست که بواسطه حدیث بخاری برمی‌دارید اینجا مسئله‌ای هست در بحث همون ارکان قیاس و هر قیاس هر حکمی که علت و اسب علت بود و اون طب متخوذه صادر می‌گونی همینا شروطه داره یک از شروط علت چارمین بند علت تاثیر محسوس اصل نباشد زیرا به همان دام محقق شدن علت به اصل نمی‌توان م... نمی توان وجود آقا در فقه تعور کرد. به عنوان مثال، مباه شدن اخیری در رمضان فقط برای مسافر و مریض است. و سفر عمل فاست فقط بر مسافر است و جایز نیست کسی دیگر ما بر آن قیاس گیرد، هرچند که آن شخص غیر مسافر، سختی و مشقتی بیشتر از مسافر داشته باشد. امام ابوطی در حاشیهش اگر ببینید، در اشتباه می‌میرد. زیرا ما اصرار دارد در این که متعدی بودن علت یعنی فاستنبلن و شب در آن شرف صحت زیاده. و در بحثون همین حدیث دیگه جناب شیخ خوندن که در اینجا حدیث شماری کنم دوازه باشد اینجا حدیث داریم ما حدیث آیشه رضا اللہ انها که بیبینید در بخاری و مسلم و احمد و در دیگر کتاب ها اومده خب İnjaw in etrasi ke jano joto... fikor de khayazan in hadis delaat dar in dare ke dar roz e e dose ke jayiz ast va ta akhiri ke masalon mik ke khodeshon goftan javab javab shatab dar ke Muhammadi dar kitab mabani-e fikr dar base elati mikunin masali ke ma dar base falsafeh dar jibukaram nabuda ast ke az goftarmay a'me-e tafaqoti ast ke ayman nakand ke ta'ay usul ay ke ta'ay usul-e mo'tabar amin mabani-e fasasi mamunin je khatab kari Muhammad miket mikun say annahu خو خودش به تنهایی دلالت بر تاکید داره بر علیت داره انها هم همینطور اینجا اومده رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه کائنه ایام عید یعنی تاکید بر علیت با اینکه این امر این کاسبب در چی فانه تاکید بر علیت این حق کاسبب در چی ایام عید فانه ایام عید بس علاقت حربت علت قاصره باشه اما تو که مام آمدی گفت اجماع در این که در علت قاصره نمیشه قیاس گرفت حکم حزر به فردون قضیه است دचारी مثلا بگی که علت جای سنن دو این است که روزی یک میباشد و با این علت قاصره است و در روزهای دیگر این اثر این علت وجود ندارد پس بدل در منحت شدن آن در روز یک علت قاصره است البته ما چه قیاس بر این روز قاصه و با در باطل بودن این قیاس قبلا اجماع علما رفت که گفتید پس نمیشه قیاس گرفت چون اینجا درد درد با اونم اینجا چه عداد موسیقی ما داری؟ اونم دست اونم دست یک عداد یعنی یک عداد چرا بابا چه دلیلی؟ ما دیگر عداد موسیقی را تحجبیدون اگر بکتیم که دست قاسره هست در این مسئله در روز این و این که اینا بقید دفت میدنن برای سورا این کلی را تحبیل کردن پس درست است که هیچ عداد موسیقی با دست قی این فکر نیست که علمان اتفاق دارن مش اگر قبول کردن که فاقیل اینه ها دلات بر تکیر بر علمیت دارد اگر قبول کردن اگر قبول نکردن که بود بر بگردن با ازماع علمان درست یا نه شهر ما بحثت من در رده تنبوله به معدلسان ما بحثت این نیست که موسیقه در روزی این درست یا درست میست شما بحثت میکرد وقت حقا درست میست البته من این موضوعی که داره مطرح میشه موضوع این است بر حرمتشه از برطرف بشه مگر اینکه دلیلی از شر بیاد اجازه بده. خلاصه قرانه که من گفتم تاجا رسم یک متاعن حلاله ما دلیلمون میگیم اگر رخصت شده اگر اجازه داده شده ما دلیل مفاهیم گفت که کجا حشر استثناء قائل شده این یک از ادله استثناء شر که با ادله تا انه آمد بر اساس تقریر کرد این یک از دلایل کتاب در جزء دروسیه اذكرت عمادا غير اله وامى حسني جبه الله سبحانه اروزيك ومركاء احسن كبرنا واشوفك هل لكم رحمه هل معكم من الله ان الاصرار واجب من الله جيد نبدا شو دك دروك شي تكون قلت اعيد لكم ثانيات تصححونا راح احكيكم اینو گفتن جنبهش باز خیلی از روزه گیر باز هم ما با حدیث داریم که در رمضان در روزه روزه اعیاد روزه عيد روزه خوشالی و مثلا طلبات اجازه داده اما ما پسو. جان آقای الله ولی اون اون واسه دست بوده جذب بوده. در واقع اینه که اونان که اون انتیویت با چیز جذب بوده. حتی ما در حدیث داریم که ë një djalë ishte, thotë ja rasulullah injazaka allah saleman, do nënë me të çka qedonat turse falë banëtan, men rule ser dëfëmen, çfarë ti se bitulani azad apo alerg in pasop bëni bëni me o m'atla fi, atë do të thotë hadis zeka ti mba poshtë, atë men kimi qe xhasme qama belëne, ma ma hadha nazaimun, ma al nazaimo in nis ke, roz idm, çajet ajo qe jo qe çajet nis من اجل اولا اكد ان من اوله ان من قائل بتحليل متلف موسيقيا هذا الكلام من قائل عندما انتقل من التحليل مقلد ضمن مجرب موسيقي طبعا ترى فيه شيء كثير من الموسيقى بدون شوره بدون استهداف بدون قواعد و قواعد حلل لا عملي. نه و بعد من دیگه رویش که آیه قروضی چیل حلال یا حلال چیزی که شما می خواهده؟ بطلعگر حرامه من اگم بطلعگر حرام نیست با شابهیت بطلعگر حلال خیاندر جمعوزه این اجازه داده در بود عروسی اجازه داده دفت اجازه داده و چرا شما نمی کنید دقیقت دفت یا به تفتیه یه می کنال دیه مثلا دو هر که در چهار علمه اجازه داده, داده در حق اجازه داده بارده چه مرده می کنند؟ صلاحیه تومفر بارده چه مرده می کنند؟ این عملی سابق تنبیه چه مرده می کنند؟ تقریبا الان شاید بیش از بیسیقی نیاز و برد داشته باشیم که بیش از دهجر و حوارش شد که پاسخ بدیم اولی مثله با اونم این که در بحث عریسی شد عریسی جایز شده بله سفادر هم گفته و یشیرین هم استنباد کرده اینهو رخصالانا اینهو قد رخصالانا فیل رخصی ولوکا علاقه رخصت رخصت در اصطلاح تقه ها وصولی ها چیه ر در اصول اینه که یه چیز حرام باشه بعد مثل برای ضرورتی اباخه بشه مثلا مثلا به فرش به مردار غوشه مردار غوشه مردار برایمم حرامه مطلقاً حرام است مردار مطلقاً حرامه ولی که در مشقت تو در صحرا بیاون داره نمیمیره جایز جایز نیست جایز اما با مختص بشه اجازه از شر اجازه داده ولی که بگیم نه اجازه شر منظور از شر رخصت اصولی هست رخصت یک معنای مفتی شری داره انتقال شک از حرام به حلال نه بر اباحه این یک مسئله و مسئله دوم باعث اینکه دف چرا در عرف جایز شده و چرا نمیتونیم دیگر الفاظ موسیقی را قیاس بگیریم با دف به خاطر اینکه شر یک اداه قرار داده حمزه در این حدیث صحیح میبینید که رسول الله میفرمافت فصل من بین الحرام و الحلال الدف وصوت النكاح الدف و صوت این آواسونی و دهزری حلال ترین حلول حلانی ازدواج حلال از حرام اینه که ما اعلامش بکنیم چطور اعلامش بکنیم اعلام آیا مطلق حری مردان و زنان جایی که شرعاً بازم روشی خاصی برایش قابل شده که میاد که مشخص شده مون هم حدیث خود رسول الله صلی الله علیه و آله حدیث رو میعطی به متعول که دختران دست می‌زدند نه مردان برای اونها مثلا فعل دختران رو تعیین کرده، تقدیر کرده و اونم یک دستگاه و اونم یک درگاه الهی باین ادات منحصر در چی است در این دو گفتیم با اداه تاکید میاد اصلا تاکید میکنه و این نکته‌ای هست در شعر و فقط مقوم صحابه اطب صحابه همین است که اینجا رخصت شده این دفزنی در عروسی برای دختران و هیچ یعنی هیچ دلیلی ما نداریم که نه صحابه نه تابعین نه بعد از تابعین تنها دست بزنند نه اینکه بگم ادواتی رسیدگی دست رو جواز کنند چون ها میرسند تو شعر این یک مسئله فقط عمره است تنقضای شده در حدیث هم واضحه سهو این مطلب واون هم این که من به شری و اجلدارو میگم این که یک مسئله داره این که ما اگر یک اصل کلی رو داشته باشیم نباید حکم اجزا رو باش باطل بکنیم یعنی ما مثلا بگو مثلا بقول فرض حذفش بکنید اگر یک دلیل فرضی عمر بر حرمتش اونقدر نمیشه برا اون قیاد برای اون قیاس گرفت یعنی نمیتونیم به طرف اینجا شرق امت دفر را اجازه داده نمیتونید شما بیارید عدبات موسیقی دیگر را برشقیات بگیرید چون عدبات دیگر موسیقی نفت سریع در شور بشونده که رسول اللہ صلی اللہ علیه و سلم می فرماین اولای حدیثم اینجا در که اولو ببینید مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیه و سلم چند حدیث ما داریم حدیث اولی شوره دور هست اینجا این نظای حق نمال خمر و اول ولكوبا وقال كل مسكن حرام كوبا طبل حرام كده تني تنظر لو محمد میگی همه صفات از محمد بگو وقت از جنگ آبی میگی تو دهبلان عباس نمیگی حدیث تنهاست حديث دیگر عن مساله ذلاب العنب ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخمر والميسر والكذبه والغبيره وقط كل مسكر الحوام انتظروا الحكم حديث بعد ان تزكيتوا من سالف العباده ولم تسقطها ان ربي تبارك وتعالى حرم على العليه الخمره والكذبه والكني كوبه كالمثلب والكني جوده واياكم الغبيره انها كل ضرر العاده حديثه فوتني حسانیت هم دیگه به تقوییت بگه نه این این حدیث نه یک صحابی اصطر در صحابه داریم و مفهوم این حدیث اینه که این عددات حرامه پس وقتی که حرام شد نبیشه قیام بره برای این چیز حرام یعنی رفتی که یک جوزی ثابت شد چونش دیگه درست نیست که برای اون قیام بگیریم اولا برپر نسال ما اینجا از بست رسول می کنیم قبل امام شافعی علیه قدس سره امام شافعی بفرمایید شروط فطر هر وقت چه شروطی داشته باشه دلیل با از قوام و سنت صحیح و اجماع بر خطف فر نباشه زیرا در صورت وجود دلیل شرعی که یک معنای نداره و استعمال باطل است به من متا مؤمن بودن برده در هنگام آزاد کردنش در کفاره قتا که وجود ایمان در کفاره قتا و قرثل اشتباهی است که با من بشوکه که لا مخ من الخطا تحرير رقبه المؤمنه اما در کفاره قتا چون دلیل قصدی داریم که مطلق برده آزاد بگونی دیگه نمیشه گفت چون در اونجا در کفاری قصد ما داریم برده این مؤمن اینجا هم باید بگیریم برده این مؤمن خیلی چون نرسی خاص داریم برچی؟ بر اون قضیه قصد و اونم کفاری قصد که خدا که تکفار از دور اطعام و عشبت نظرکی من اوش و مطلق امون از نه تو قیاس حقیقی که او کسوات او تحریر رقبه مطلق مجرد نمی شه اون یکی رو بل این هم همسر امام <تصفيق> شافعی در کتاب رساله بیه در صورت وجود طلب یا دلیل قیاس درست نیست یعنی اگر دلیل عمر حرمت یک چیز پس دلیل ورود دلیل صحیح در حرمت دیگه نمی شه قیاس گرفت و گفت که ببین چون اونجا در ادله جواز شده پس تبع و دو فهم جواز میشه خیلی مطلقاً قیاس ایجاد درستی نیست رضي الله عنها. و لاحظت ان هذا بحث هذا يعني كاني بحث كي رامي مطلب شيء يعني تقريبا. انا حطت حديث وشرحه سر كده ان مطالب از حديث به حديث دیگه دار میتریم. من دوست داشتم که اول به حديث البخاري بپردازیم، شبهات و اشکالات و اعتراضات پاسخ بدیم بعد بریم به دیگه احادیث. تله تله. اسا اسا طور پر یہ احادیث شما فرموئی ہے اتفاقاً امام نے خلاصے خلاصہ اندر لسی کہ یہ فرمودا ہے احادیث کو بدلنے کا مدان چیز کر سکتا ہے مدان دکھی جاتا ہے اور ہمیں یہ احادیث کو تصدیق کر رہا ہے کدی ترینش در حقیقت باوں دلیل بتا تو اس بارے میں ہاں بولا تو وہاں تک دلیل ذات کی ایک تا اینکه جامعه احادیث بر مبنای گزارشات ما اصحاب علما همیشه بردم دی تا بلو هست تک بتک میگید کجا هست مشکل ما بهش پاسو بدید حالا اگه ببینم من یه چیزی را پیدا کردم ا ما ضمان به شک من ها این در مورد غنا و من بهش کتاب موافقان تحرید بنا بوده این چه شناختی هست که ببین گفتم در مورد زن و قناع و مزامویی، تقریبا صد تا حدیث رو باید شده از این صدتا هشت باش شهیده هفتات باش شهیده و دیشتر داشت صدتره که بردی شهید و بردی شهید نیست اگه چیز راید بتونم؟ شما میدید که صحیحه در صحیح بودنش اجماعی در, در, در, در, در, در, در بر اتباه نفر نیست تنها چیزی تن حاصل هایی که شما داری تن حدیثی که دایید اون حدیث بخانیه وقتی احادیث روی تحلیق بودنش اتفاق ندنی بگرانه علماء در مورد حرمت موسیقی اختلاف نمی کردن و کسی که خیمان شاقی نمیگو که تحلیق موسیقی حرام بلیمی سبحان الله، تجا گفت گفت تو اون مطلب بیارم بیر që përdosh miqen apo jo ma apo mundon mundhatë da inë ke bëhet hadis be muttaki be da të bëhet istilal bëri be da skëtoje munt safi vo mamleka be hadisun vo teşkil biri çdo qoftë jun ahkam ahkam iksel be ijmau ulama be ijmau ulama lazem nis da ahkam feqhi ahadith mutawatir bësh be khati bësh باصحره از این حدیث اگر رواویانش ثقه بودن می‌بینید عبدالله بن عباس، قیس بن هبت، عبدالکریم ثقه ثقه ثقه و اینجا امام محمد بن حنبل روایت کنه استقامت چه مشکلی داره این اسناد؟ آیا این چنین این چنین دلیلی که میاد بر حرمت یک چیز و دلیلی که اومده بر یک مسئله اعتقادی نیست که علمای اصول گفتند یک مسئله فقهی است. آیا دقیقاً مثلا با اختلاف نمی‌شه به استناد باید حدیث متواتر باشه؟ که جامعه جدا هستند. مثلا شما میگید این شما میگید که آیا واقعا یکی از اعمدۀ علمای رجال درودی که اینها سر کثرت ثغرا دار وجود داره. چه با هر قدر وجود داره؟ بحث علمای جنا تحدید کردن. آیا ما هر خبری در راوی میتونیم خلاصون بفرشیم و بگین ضعیفه. ما میتونم حرف شما رو بپذیرم؟ هر حرفی مورد قبوله. علمای جنا تعدیلند. جرح تا وقتی که متفسر نباشه تا وقتی که شرط ثابت نباشه چی گفته و چه رازی ازش نمی‌پذیریم این قاعده متفق علیه پیش علما و علما جهت تأدیب فا وقتی که جرح مفسر باشه تا... کسی نمیاد تبیین که شما به من بیارید دلیل بیارید که فلان راوی الان مشکل داره یک از علما گفته ضعیفه دلیل بیارید جرح مبصر بکنید چون تعدیل هیچ وقت محروم نمیشه با یک چیز با یک دلیل ذهنی جرح dat aron da jaf vota adi ta'dil muqaddama ka jaf mufassal da bash bale ka jaf qasana va su jaf na qadale aga jaf vota bash bale chash richmanon mi tajirika bale kul hal smak qul chismat aron ki ihtimali ana mas'ala ka ta'assala da ay ana juriya man jine ke ya'ni hurati mustaqim juz'a atiyat mufidat ka bale ki khassama da mas'ala ikhtiyari da basho tene tame ke juri ni tetare juri ni ma alam yek ke ananoye ta taimen mazah davare gofte mishadan alab ba asb bahas muntadeshud da ami mazah bo hadis tan na yek shoma yek ke shoma yek saghat madalib yona bare ruye masale ayan vaghean in moqida khar bud yani in ahadith moqida khar bud ke ejter mirasan dalili nadast از آن من یک شهری گلستم از یکی از کلاما که برانم خودش آقل به تحریمه باید مشناه کلیش برانمانی برانم کنم Hamor, so ungo puni, mena men, om naterden dor injo. Menam om dor injo. Hamor. Hamor yomay, wa qala ash-shaatinu 'anhu, daraja an yatahyiza al-ghulama wal-jadiyatan wal-mughanniyin. Fakana yad'u 'alayhima wa yakha lidhalik. Min ani chidara fidalik. Oze, yad'u 'alayhima دكترو كثيراً دكترو فوضعونا بناربها الجنفة فهذا صنعهم جردوا بيش عددهم وهو في الجارية أكثر تحدينا ما هل نظر للشيط آبارديس باعث من عهنجي هم ببعض من النقلية تفهم الديار فإن كان لا يشتميوا عليه ما ولا يحشى لهم كارهة لذلك ولم تكن ولم تكن فيه مرتدات بيش عدد فهذا الرجل ينشي يأشى بيوت الغلاء ويقشاه المغنون إن كان لذلك مدمنا بغانا لذلك مستعلنا مستعلنا علي مشهولا علي فهي بمنزلة السفاة تردد لها شادته فإن كان ذلك يقل له منه لن تردد لشادته لما قصف من أن ذلك ليس بحرام ضيئ و اگه کلی که البته خلاصش بگم خب شه امام شافعی در کتاب عمر جلد 4 صفحه 95 شما تصدیق این تقارن باوشتو زشت. چطور ثابت هست اگه خاصیت به تو میده؟ شما به درون فکر کنید. امام شافعی گویاست در وصیتش اگر بگویید بکتی که از من اسم میبرند تبی از قبله هایم بنوید. من می خوام ببینم میگم به طرزندارم تبریک خدا نکنه اگر آن طرز استفادی دیگری جز طرز زدن به آن نداشته باشد درست نیست که آن شخص آن را بگیرد اگر اون فقط بهش تبر می‌زنند درست نیست که اون شبهه وارد ادش بگیره مگر اینکه آن طرز در جنگ از اون استفاده بشه یعنی تنگ جذب جنگی طرز جنگی در اثاث نماز و این همانند این است که بگوید به وارد در حیواناتی از حیوانات روی زمین بدانی که درست نیست به آن وارث خوک دهند و هرچند که بود یاد طع بدهید فرقی یعنی بین خوک و طع نیست و همان‌طور که گفتم اگر طع برای غیر از طع زدن از آن استفاده شود وصیت کردن به آن درست است بلکه فقط برای طع زدن استفاده می‌شود وصیت کردن به آن نزد من درست نیست و اگر رو یه یهودی از بودهایم بدهید، اگر اصفای دیگر جد او بزدن با آن نداشته باشد، آن بسیت هم نزمان باطل است. و این گفته شامل تمامی ادوا کمسیدین باشد. و اگر بگویید خلوطی از مالا رو به دهید، هر خلوطی از نی و یا چیز دیگری که برای غیر از نی زدن استفاده شد رو به دهند، و اگر اصفای دیگری جد نی زدن نداشته باشد، نباید او دهند. جایی دیگر جنده چارون سپهی دیویسی و بیسر فرگات انا مچافیل میبید در طورت قرود یا نی و طبی را پرد کنن آنها اونجا بطیعت بود که درست نیست اینجا چون حرامه درستی بطیعت بکنن مثل خوب اینجا در بحث چی هست؟ در بحث خورد کردنی اگر ترن کیودی دی با کامیرو خرد کنند اگر برای کار غیر از موسیقی زدن از آن استفاده شود باید آن شکن و جبران کند و اگر فقط برای موسیقی از آن استفاده شود چیزی برگردنده اون نیست حلال مال حتت عزیز برش نیست من زنم بود فلان رو خرد کردن قیمتش به معنی نیست چون فقط بود برای او زدن است و هر چند شخصی مسیحی یا یهودی یا مشکی آن وسیله موسیقی فرد مسلمان را خرد کنند پیو مسلمانانی ادوات موسیقی ام را قانون رو خوردن تعویض و جبران آن باطل است امام به حضره نکمی از امام شفیعی گفت‌های امام شفیعی بدون هیچ شک و تردیدی فهمیده می‌شود که سایر ادوات موسیقی مثل نی هم حرام است از این گفته قبلا گفتنی فرقی نداره در مذهب اینکه تمامی ادوات موسیقی حرامه و ارت گذاشتن درست نیست به حدرم است دیگه گفتم چرنا گونه وازعه تر از این باشه اون حرفی که جناب شیخ خواند بحث زنا است موسیقی غنا نیست، غنا اینه آوا. آوا، هر که خدا جنابعالی صدام گفت، اون آوادی که بلط گنجش میخونه، اون آوادی که زنی میخونه، مردی میخونه، هر کسی میخونه، بلکه این میخونه. ولی بحث من گفتید تحریم علذها کردین گفتین بحث من آهنگه. اون موسیقی که با ابزار آلات تولید میشه. و اینجا همانطور صحیح از امام شافعی هست. سبحان الله. ا جمله دیگه ایی از از امام دلت... اذكارت علماء واسم مولانا الشيخ عبد الكريم الخديوي منها الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخديوي اذا كان الخديوي قائل تعليم الموسيقيها وكل شيخ دخل عندما ان الناس يستحل الخمر ما يستحل وما كان لأنه مختبطة بالنصوص القطعية ولكن الذي يتهل الحرير ويستحيل المعاطر لأن تبوتها ليس قطعيا لا يصدر عبد الكفر ماذا كان على قطعك؟ شيء مجروح تبدأ البحث أحكام الترقيق لازم يستخدمها بها قطعي البحث أحكام الترقيق يجمع تمامين يعني تمامي كتاب هو الترقيق شو ما بقولي أحكام الترقيق النبوة ليس دليل قطعي ليس حديث متوتب ليس دليلة زنيها ليس صابتة حب استنقوات مشه استراتیجیک اورد یم یم مثلا اسلام لیکن ا در اشیاء عبادت جو کی کو ندارید نہ تبو ندارید اس در اشیاء شو... کی در غذا در یہ در غذا ہا بله ولی در در عبادات حرام در عبادات اچھا اشیاء کی منظور کنے عبادات ہست نباہ است در اون چیز کی کہ علماء درس در عبادات و در غذا حالا تحت عبادات نمیشه درست است خوب حالا، شما اگر چیزی را بادری قفلی، بادری بسلمی تحریم دردید خوب فکر نمی کنید بارد تقابل على الله به شدیدی خدا را می قرد بلا تقبول اللهم نصف و رسلت و موید پس همه اعیمان متقابل بر خدا هستن که تمامی کتاب هاشو بر احادیث را هستن کل احادیث متواتر قحیط خط بیشتریست پس همه اعیمان چون زهنی متقابل بر خدا شدن، پس کافرن بر har ihtimal Allah Allah kaafir kaafir nisan main bas main dimaag se un cheezon ki garan demi gan un cheezon ki garan demi gan unha al zaniya taqlima ka kitab umm al manshurin adla sadiqah zaniya adla sadiqah adli mushafiqah hai na hai adla sadiqah yani bas yehi hai ke bola har cheez bola har cheez bola har haadisa ta'kid chada hai asar to beshtar ki nahi hai asar to beshtar ki nahi hai امام شافیق هزار و هستت تا حدیث بره یعنی هزار و هستت تا از احادیثش زندی سبوته تحنی سبوتی بیش وقت امام شاقی چون زن... اصطدار به زندی سبوتی بود کردیم مقصری بر خدا بنده مثله اینه که وقتی که شما چیزی را که حکمیلی دونی حرام هست و من از بیگه اگر کسی این را حرام نمانه کاملا کاتنه کافر جناب <تسجد> چش ما گفتیم تعبیر یک مسئله خاص خودشه ما گفتیم این کار این مسئله کوفر هست درست؟ شما می‌گین آره. یعنی تعبیر مسئله کوفر یعنی اگر من از طرف من باشه که به قول معروف تخصصم حدیث به حدیث به قول معروف مثل روز برام روشنه من این کار بکنم کافرم اگر من ولی که نگذاستم له ما این کار بکنم هیچ وقت پس من اشتباه بله ولی اشتباه ها. بحث اشتهاد بحث اشتهاد دیگه هست چه مسئله این ما حق اشتهاد داره شکلیم مسئله نسط یک در نسط در اشتهاد نداشته باشیم اگر اشتهاد میخوام بکنیم در مقابل نسط ده باشیم یعنی شما بیارید نسطی که در مقابل این نسط واقعی بشه كلين حضرهات بكونا قولها في وطنكم يعرف يعني الناس في المانيا في المانيا اليوم في المانيا فيش قدر نقابل الناس بكونه كافي مش لا ايش قلتوا اشتهار بمقابل الناس الثقفي بكونه خاطر مش الناس الثقفي ما قلت الناس تاع الجنس بس ذنيها هذه شي قاعده عامه سؤال مني كافي اشتهار بقدر ذاك ولا ناس ثقافي خاطر مش هاي شيء بیشتر مسئله تعقیب این که خیل. خیلی از کلاما در مقابل مرحله اشتهاد دادن و قائم شدن به اینکه موسیقی حرام نیست چه چه موقعه اج... چه چه موقعه اجتهاد جایزه اجتهاد فقط جایزه شخص نثی نداره از قران سنجد تو نداره اجتهاد بکنه ولی که نص هست من 20 حدیث آوردم ولی واسه نص چرا بری به قول فلان و الا الله هر وقت هر کسی بگه بفطوشه غیر از اینکه ما اجماع داریم در دا این مساله میخوام من اجماع رو براتون بگم شما بگید کدوم یکی از این اجماها مشکل داره مثلا به خاطر Saen, and, and, un, jade, theo, ima ima jade, imam an-Najeh el-Mama an-Nabi Aziz naqmi kune inkare ke bar an-Nabi veli ikune vakti ke tazanesh tu ikune vakti ke nigi ke ru'anha kal ma'atel bel mizmara bid'atun fil islam bid'atun fi qolaka hamamtu an ab'at ilaika man yujiz jummataka jummat as-suf yama mujalisa tadi ya imam al-Juri imam an-Najeh dan misal akheri madla bu bin mabdajakan usat al-asmak miya shida nadat al-mujaddid bashida takhakku an an thalhay haramat و اولوکر آجوری و دیگر اولاو بر تحریم آن اجمال نکتردن امام حجر هیزمی و از کسانی که در تحریم عدوات موسیقی اجمال نکتر امام فیرمان متاخرین امام عمول فتح، سلیم بن ایوب رازی و رادت سال سی سه شد قبل در در در در حجب بوده که ناکر در تحریم موسیقی، امام تبلیم قبل در در در در حجب بوده، اسد اختلافش، اختلاف Imam Ibn Hanbal dar ijma ase ta ehtibar dade shazra me nje qoftë e aime. Hamë anë ma goftën ke Ibn Hanbal goftë shazra dar meqabel e aime ne yki Imam Baghdadi. Vafat çall poçai shazra, vafat shazra ne xaqosne mbi dia. Ulama dar tahrimi e alatit muziki be nay be qazi hay dhuli ittifaq daren. امام ابن عصرون تمیمی بلاده چار سر نباید و دو اگر علماء چهار در طولت یا نیدید صحیح این است که حرام است بلکه در در درابر در دیگر از نوات موسیقی که به اجماع علماء حرام است تحریر تحریم آن اولاده است امام ابن قدامه ادوات ده و بیمیلی مثل نی و قول و طول ادواتی برای کسب گناه است که علماء در تحریم آن اجماع دارند یکی دو نفر که نیست ما یک نفر کنیم و بحث علما که داریم اولین کسی که اجماع رو نکار کرده کی هست یک شخصی به اسم کی؟ نظام نظام مرتدلی که اینجا مثلا ما داریم در مخالفتش با علما امام تاجدین صبحی در کتاب الهده ها جهد دونست جفنجاسی میگید این نظام که مخالفت با اجماع کرده و اجماع رو رد کرده اگر صادق ابن ابراهیم سیار نظام باشد در بازار بحث کارش بالاتر و دوختن بود است و اظهار مذهبی معتدل را می‌کرده و فرقه نظامیه دولت و ذاته می‌شد ولی او زندیقت برای او زندقت بود و برای طعن وارد کردن بر شریعت اسلامی اجماع را و اقا تدا و همه اینها زندقه باری است که الله سو را لعنت کنند او کتابی دارد که در آن خدای بیگانه را برای خدای یکتا ترجیح می‌دهد و اگر تظاهور رو به انتظام کرده، به دین ایلت هست که از چمشیر شعر و دین فرار بکند میمن عقلانی سنت و قبول نداره تنها کسی که انکار کرده نظام متزری هست و علمان همه گفتن که این شخص زندینه یا شخص مرحده یا شخص متزع و باد و مرحرسه این بحثی هست که علایم اصول دارن علما که همینطوری حرف نمیزنن عالم میاد اجماع رقم میکنه یعنی چی یعنی متعهد میشه به این که هیچ کسی اختلاف نداشته گفتم امام بخاری وقتی که نمیده حکم اسلام بود بگه بخاطر شریطی بوده اختلافی نداشتن علما در قضای در مسئله موسیقی حالا تو با نگاه داشتن این که قضیه یه چیزیه قطعی بوده نه یکی شما فکر میکنید مثلا اجماع بود ازلی اجماع مسمسنه تنها ازلی اجماع نیست مذاهب اربعه هست امام ابو حنیفه امام البحرانیز این از بلایی که شرمت بودن آهن نزد امام البحرانیز این بوده که در اجار دادن ازوات موسیقی حرام اجار دادن از ازوات موسیقی حرام هست و چکستنه آن واجب هست واجب که ازوات موسیقی خورد بشه امام ام ام بیجاری کداصل 1450 روز به دنیا اومده در شب کافی چی میگن مثلا امام علی به اجاره گرفتن بر آواذ و نوع سرایی منله و تپ و با دیهای جوده و خداخانی و سرونل شهر و مالند اینها درستی و این ادعا فاضل کی ندار از همه اینها اول ابو علیه و یوسف و محمد بن حسن دی رأی کارها ناقص دراز امام ابو حارث ابو خالد چی برسه به تجزری و دفزری و دیگر مسائل نه که امام ابو علیه امام مالک درید کی در کتاب اول بود اولی اومده از امام سفیون تنوی بیات امام عبدالرحمن بن فاطمه سوال کرده تا امام مالک بدهند در عروسی جایز بینه یا نه بعضا میجراتن اول جایز میذاره یا نه امام بن فاطمه بیات امام مالک کذب و دیگر ادوات موسیقی را در عروسی کراهت نه حرام می‌داند و آن هم بدین علت که من اذه سوال کرده تا اجازه بده چه را میگم امام مالک اجازه شرط اینکه منجود از کراهت چیه مثلا امام از فاصله تا پردازی لینا این قراره در بعد دوم میگه امام مالک وقتی که امام مالک سوال گرفتن وقتی که امام قاسم این که در وقتی که امام مالک طرفتن این کتاب‌ها این کتاب‌های شعر و آواز و ترانه‌سرایی و قرارم گرفته اجازه دادن آن کتاب‌ها برای مطالعه نه جالب نمی‌باشند یعنی کتابی هست شعر درشت کسی میخواست آواز بخونه برای اون شخص این کتاب‌ها درست نمی‌کیبوره جیراچی جیراچی که طرفتن آن درست نیست اجاره دادن آن درست نیست درست نیباشه. پس مقصود از راه دیگه واجبه تا فقیه ام مالک. قابل نی گفته من نظر امام مالک امام شافعی احیای اثبای امام شافعی ماوردی و شیرازی و رافعی و نبوی و خضالی و دیگر ائمه خطیب دلاتر میخونم یا امام مالک امام بهمن خطیب و اطبای محمد بن راتن میخوان. لا دار الله تعالی شریفه در بحث اجماع و یا ایتخابتون بردیم که اخیل وقت اجماع خست کنم اخیل وقت اجماع خست کنم سالیم که ما نقصند ادعای مدرزان یکی بردیم ادعای اجماع در این بساره افنام یکی مشکل و مشکل وقتی یکی معترضی باشه چطور؟ مشکل وقتی یکی معترضی باشه بسا ام بلکر زمان تبری اجماع نقمی کنه برد نگر یا شخص با مرور زمان انکار بکنه این وقت این اجماع مشکلی ولی وقتی که کثی نیست مثلا به فرض امام شافعی یا امام فلان میاد اجماع نق میکنه بعد معترضی نیست یک قر میگذره فاصله هم میگذره بعد کثی نیست بیاد انکار بکنه دیگه چی دیگه اون قول شائسته چرا مثلا به فرض ما ولقاکم منکم امتی یدعون الی الخير و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولائک هم المفلحون امام علی علیه السلام به طریق کشف اسرار می دیا لو متاعید در اسم جنس معرفه ممکن لازم است ادراب و در بر لفت کلیه حالات پس خانام به ار معرفی به علت دادن و هر ممکن یا نه کردن یعنی غیر ممکنه یک کاری باشه مگر کرامه و هر کش نادرت باشه یکی پیدا نشه بین که حرف در درسته مثلا امام طبری اضافه میکنه امام طبری قبل از اونم بحث بوده. بر کینه باشه برای اینکه کار بکنه. اگر آنان با حرف خودشونی اشتباهی اعتماد کنند، در این حالت اجمال آنان روی گفتار منکری می‌دند. پس آنان دعوت در واقع در پی مکر بودند و ناکنندگان از انجام دادن معروف که با ذات این آیه متناقض است. Hafizatan iqrari istaqala ka sahaba sakir min sahaba da shurrat alakanu da ka me mushkile munkar ki Muhammad befarmayat bar da'i isma'a ka kadhaba ala an nas khalafi Allah ta'ala kullu barakan mushkile iqrar al isma'a charan bi hadirinki ba'd azinki sahaba be'anhas ul wasa da tamam sahaba tamam da da madina budan iqrar al isma'a da aman budan an sa'id Ahmad اللي فاضل في مشيته طالعه من زمان شويه يا علماء يا شاعي يا مصطفى علماء الشر في مساله مثلا سباق الخربا بقى تفهمي يعني لو فرضنا ان والله شر تمام انا بقول لو انا من الاسئله القرارات للضوابط مش هتبقى هنا مساله يا جماعه خالص في مشكله مش باغاك ايه مساله بس تعرف حضرتك دكتور لكن كتير من مدرسه اجماع وجود داره خالص شويه نقط اظهرت بس انا بیرد این لحب کشانی دیگه برای این نظام می دانم در بیان علماء و در بیان دانشاندان الاسلام جایده خودشم را دارم هذا الخارج بحرمت الموسيقى ليست فقط اجب بشيء مثل الورفان محمد ابن قائد الفيتراني <ممتغفر> يجب ان محدثين بقبار الشافعية ذهب قال من سابنون مواصلة من غزاليا دو سال قبل الزلالي الدنيا دو سال احنا الزلالي فوت ممولن هذا الخارج بحرمت الموسيقى أسان ليست كل ناس جسد راحب الحديث عن طول نوزهات راحب الكتابات ديگر تجمع تدخل الوردي وإسلاحوني وكتابات ديگر هذا الحديث أسان يا صاحب الكرم اسمه ابو بكر بن العربي ماجد العربي السوفي ابن العربي السوفي ابن العربي ابو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله السلمي الحمدستي الهرمكي ايه غير جده جده قال لك زمان زمان كمان زمان امام ااا اثر الى حد ان قتظم ما در مورد متنی که با قرآن به تشریعی، اگر در صفحه یا ماجول بدی برام دوستا با ساده بطاهر و امام احمد و صفدا. فقط خود غزلی، خود غزلی با کیشن، ساعتی که خوندی برات چه؟ نه، غزالی Aly qasid doware mikone. Ja, qasid safa manin halene, hal qasid doware. Safa manin ke ejazat ejaze mishe, in do ta mase tar man begam chon hesabish tar. Man alam shoma, man marfat chastan be shoma, amma ke shoma migin ejman, man migam ejmani. Chon yezune kajan chi man tar badame tar jib o adagat kardan ke like asto be din. Vali hada man chi be maye asto be din. ثابت این اختلافشون من نفهم بگم امام احمد گفته شخصی که دای اجما در مسئلهی می کند اون اجما دروغ است پاسخ نواه کنید گفته کامل چیه؟ گفته کامل و کسی که دای اجما کند دروغ روه است امام احمد میگه شاید مردم اختلاف داشته باشند اختلاف منانی هست درست باشه اینه دای بشر مردی و او بکر اصم هست او بکر اصم اصران این افضل هست بشر مردیس در بارش میگه امام ابن حجر در لحثار میزه بشقه میقیاس مردیسی مبتلق و گمراه هست نباید از چین شخصی روایتی نفت کرد حالا باشد این مسائل اون چیزی که هست الان امام احمد اجماع و قبول داره و این قضیه متواتف در قضب امام احمد یعنی این چیزه به بیگی هست اگر اجماع قبول ندارد است اصطناد رو به اجماع نمی کرد و اگر اجماع و در این گفته نفت کرده و گ مدعیانی همون چون او بکره اصم مقصدش بوده این حرف کاملی بخونید این ادعاهای این اجماعی که نفت میکنن ادعاهای بشره مدیسی و او بکره اصم برد نه نه گفت داره علماء به قبلش رو بده همون چیزی درشنی درشنی درشنی درستن قبلی اصمون مده همون نه نه نه اینجین اینه شکی ادعای اجمال در مسئله میکنه که دانش ما دروغه، آن اجمال دروغ است. هر کسی که ادعای اجمال کنه دروغگو است. شاید مردم اختلاف داشته باشند. این ادعای بشر ملیتی و اثرم نیست. نگاه کنید امام احمد مثلا گفتش چرا اجمال قبول دارید؟ ابو داود در مسائل امام احمد نقل میکنه. میگه چنین برکه محمد گفته شد: قرائت توره پاهه پوشتر امام از فرشوده الهی در قرآن، فتبعوا له. هنگامی که حالا آیه مسمعش میفهمید، خاص شده است. امام محمد رو از سکتی نقل میکند مردم اجماع دارند در اینکه این آیه در شأن نماع ناظر شده است اجماع قبول داره نداره؟ یا مثلا ابو یعلا اجماع در چه فاصله قبول داره؟ در چه فاصله زمانی؟ مهم نه؟ اجماع علما اتفاق دارند اگر فاصله زمانی کتاه و نباشق اجماع معتبره این اتفاق دروش اولا مثلا بالفرد اینجا میخونند امام صبتی در رفع حاجب در مورد اسم استغفری بیان اگر پتقوا تکرار شود و مدت آن طولانی شود و مخالفی در این مساله نباشد سبب قدی شدن آن می شود و اختلاف در این مسئله به جلالی بودن مدت زمان یا کتا شدن برمی گردن و به این مزئله ما هم تلمسانی اشاره می کنه به آخر این وقت دلاغ تا این مسئله سوال من جوان بده جدوان یعنیه که بعد از عقل صحابه که صحابه یا بر صحابه در شهران متقارب شدن فراکم نجیزن کنفان در تحتیب هم نبود و داریت موجود مثل الان نمی بود Fotë e para ja ku do të bëhet, kur të ikoi xhaxhi, fotë që do të dashja. Atë vetëm tek, për shembull, dashër vajë nuk më kërkon. Më e ke të jetë hata, thamun se asha nuk më dëshiron. Nuk është se nuk e dëgoj, po falë. Në çfarë bosht e ke lloj të një vakt dashur. Sheh, ne do kulishta ai më. علمه اون زمان که تو مدینه مثل مبخاری و فنان و فنان شهر به شهر تکتک شرف ها می رفتن کتاب ها را می گوندن همینطوری اما عبدالعزیز وقتی که این کار می کنه روی عمرو بنوالی می گه همینطوری هست علمه بختان وقتی که اتفاق در نزد علمای اصول اجماع سکوتی همون که شیخ قدبه رمانیت هم میگه اجماع سکوتی وقتی که یک شخص حکم صادق بکنه نه یک شخص منهاش فقط حرف زده که ادعای اجماعو کرده وقتی که یک مخالف وقتی که اینجوری ادعاء صادق شده یک مخالف نیست کدام حرف معتبره این یک مسئله اما بحث ابو طاهر قیترانی رو کردی ابو طاهر نه اون بحث عین الشافعیه که ما داری این شافلیه، من اونجا شیش تا مثال آوردم امام مابردی آوردم، شیراتی آوردم، راقری آوردم، نلدی آوردم، غذابی آوردم، فی همه اینا طالب تحریمند امام اولفرد ابن طاهر قیترانی، امام اول حدث در لسان میزان، در دل باره این رو میگیه، ملحب به یک ظاهری بود، یعنی طابق حضم و فی مذهب بوده و امام ذهبی در ایزانتقا به طریقی و تفاهماتی بود در تعلیقات زیاده این شخصی که متوکس مفهوم زیاده سوء حافظه داره شخصی که صوفی ملسکه اصل دوپو نظر اپوسانیات شو بریم به اعتبار قائل بشیم ائمه مذهب امام ماوردی در کتاب اخاوی در کتاب اخاویش نیویات اگر تند بنوستی که همون بوته مصطفی تکرار میکنه ایمان نقض در قضیه تحریمش امام شیرازی هم اینطور امام رافیان هم اینطور halam rabbi bi biat adavat musiqi mesrun basar va tar va digar avaz adavat musiqi va hamchenin sari va but dar az vengordan ama hich avati nist zira estefade az anha haram ast yani goftan az az miyan asbu' imam chali rahimehullah a rahimeh rahimehullah almae ta khad 1 نفر اول فر اونم ابو الفات به طاهر قیسرانی که صوفی مسلک va ظاهری مسلک بوده چگونه این حرف در اعتبار بیت ببینیم va بگیم که اجماع با این مخرووم میشه چه مثلا بعضا بعضی در تساوی با امام غزالی هم امام غزالی امام قزالی منظور نمیگه براشون امام غزالی میگه اونها رو حرام دانست به استثناء میگه نه امام غزالی گفته اگر هم حرمه ندخات ایجاد بشه به خاطر چیزی دیگر یعنی اگر اون چیزها یعنی بخاطر نزاد بخشش میذنی من میگه شنی دان باور ترس که بدون وزن متناسب داده میشبا ولی در بخشش نیست حرام است حالا چه برفرض بر وزن متناسب باشه نباشه اگه بگی تاب بزنید بلادرزیید بازم حرام امام قزادی میگه نستش هم پس میتونید بخونید فوتول بعد قضاوت بکنید برای گفتم الان ما از دست هر کی نه وقتی با ائمه مذاهب بحث, بحث اجماع هنوز حدیث مونده ما در منو گفتم 19 حدیث دارین که واش بز ببرادید و خوشم حدیث بخاری و زلاله بحث اجماع هل موحد است اجماع باطل این که حدیث منکر قبل از اجماع شه ما را روی احادیث اثر نداره روی احادیث این آموزی است به خاطر اینکه عینا واقعا روش اتفاق نظر بود و سعه بود که در هر وقت این جذب یقین رو فقط ایجاد شد. دقیقاً در چه برداشتی؟ چش چطور ما از عزیزای سنادی، عزیزای خدام دیگه صحیح است. یعنی نفر داره، از اون دیگه همین تعبیره. شیخ چطوره که 4 مذهب اتفاق دارن ائمه و اسبوع اونها اتفاق دارن در این مسئله؟ شما برمی‌گیم که از چطور ده مذهب را شیخ می‌خواد تکوزه گورا؟ قوله اجازه دي اجازه دي امام غزالي امام غزالي امام غزالي اصلا چند جمله دي داره خلاصش فيها غزل غزل معلومه در تصوف مسلکش نوشته اون موقع که تصوفی مسلک بوده فلسفه میباخته تنصفه میخونه یا بعد از اون بوده کلا گفته اگر چون واظار می‌دونی که مثلا علیه باید کیمیای فطری یا سنت‌های متدلیه شما باشه باید اعتبار داشته باشه معلوم باشه کی از هر کسی مشکل اینجا انجا اتفاقاً بالله که تبین باشه باشه طبیب بشه طبیب شخصی که ادالتش شناخت نشده نمیشه به ادعای هر کسی نیست دین که کوچه‌ایونی نیست هر کسی به استدلال بکنه دین برای خودش تخصص می‌خواد ناسخ و منسوخ می‌خواد فهم لغت می‌خواد قواعد لغت عربی می‌خواد بمساقطه قانوني سناتي كنيد به هر كدون احترام كنيد و تا حدي سلام كنيد. بعد از مسللمين چه چه تا كه هكار بركترو داخل، داخلش، مرخي حاكي ندادم. من گفتم امام غزالي معلوم نيست كجا گفته. چون هر كه امام داري برخلاف اون چيزاتي كه شما ميگيد. امام غزالي و اين صداها ادوات موسيقي و كار كه به ساز زده ميشوند و از انواع ني كه دين آنها را حرام دانسته. ميگه دين دين آنها را حرام دانسته است. استثناء ميشبد اين از جمله صداهاي مباح. عدوات صداهای عدوات موسیقی استسلام می شود بلکه می بویم شنیدن انواع تا که بدون وز بز متناسی بزنی بیشود و در ضبط بخشت نیز حرامت خودمی کاردمم قضیه مفرزدی حادثه مولانا رومی شو اینو تاثیر خود بذار که میگه اون ایمان اجالی میگه بدمار و علایی و در قرار من از نه بخاطر لزات بلکه بخاطر لوازم استفاده متآلفات گیری خاطر گیر अरे مثلا حضرت جملات جدا میگه چنین تاثیر استماع و سماع مخصوص زمانی تحدث و سماع او هونا ناتي في الله من عمل الاعتدال فعيد الرهبانيه لا في خلد الطبعه فخلقته عن الجمال الظهور بل عن جميع البوار فان جميع اسرار النغمات الموسيقيه ذات طبيعه ما لم يحركه الربيع واثاره بل عضو ما صار فهو حافظ البدا ليس له علاج جدا لا نغصان يا شيخ شمالي ما تقدرني يا حضره دينا ان مندرو میگه چه کو چکنده است مثلا من, دیگه سرحت سرحت سرحت. این دیگه من میگم شما بیگی در اینا طبات تامین چرا برای واظ موزه هایی که شریفان هستن شریفان چیزی نگنی میگه از جمله صداها این صدا استفناک شه حالا ما باید گن به خود حوادث شه ماشینی که شما بحث لذت بخشیشو لذت نبخشیشو اینا بذارید کنار مثلا مثلا شما گفتید در صحیح مسلم دا کردن که حدیث ابن فرمات الموسیقی نیست مثلا دفعه چرا و موزه زاید غوله miga tu mosulmane hadis sahih muslima duta neki ravayat duta dari muslim chawale 3957 ke da do tarikh davat kiya hum na jib khatibe ke jarat ne chawale ke tone zang dare awaz dar awaz khas dare nerangi awaz sahih muslim ijo ham dare sahih muslim ke imam muslim riwayat karta ke hore na tahabul malaika rufqatan fiha kad wa rajal rufq yani grak bi majmuai ke hamraish zangule bose malaka hamraish na miran chira الذات برچی نه چرا حرمت حرام شده قبل از اینکه با چی با خاطر لذت خوردن این حدیث رو برچی از زنگوله زنگوله در سفر همراه رخت باشه به هیون باشه باشه نه به انسان اون صدایی که تولید بکنه تا همش ترش ها رانده بشن چرا چون مزمار شیطونه فشورشوا انجي لا يكي ان حديث حديث ازهره ده صحيح مسلم حديث عبد الله بن عادث عن رسول الملائكه ركبن معهم الجرجل ام, أم حبيبه قالت ركب الملائكه رقصت فيها جرب بس هي مسلمني هي مسلمه هي يعني شما متي تجين تضمر انا انا صحيح مسلم ها ما فقط ایک دفعه میکنم به همون نسل که چند حالانه شما از کجا اصطوری مجدد به عرص کنگید که خیلی اصطوری مجدد به عرص کنگید که خیلی اصطوری مجدد به عرص کنگید پس شما قبول دارید که یک حکم جدی در یک چیز صادم شد یک جد صادم شد یعنی حرمت زنجیل شما حرام است که شما من من از هر ذریبی بیاد با اسناد صحیحی با بفدری طبقه ثابت نکردید که ضعیف با بفدریدون رود و اون تبلی که نه تصریح ما در شرط در مسلم و احمد ابو داوود و دیگر کتاب ها که من از صحابه گفتم با ذریبی بیارید چون احادیث ضعیفه شیخ من قبول نکردم من میگم من فقط قبول ندارم شما میگید که من مثلا وقتی در مورد صح نادر شده من فقط یک غیر نندم بگم نه من همون دارم من نیستم من من نگفتم که من نگفتم این این اجماع رو شن این استنباط ها نه استنباط من چهار مذهب رو شه اصل فقه مراعات بشه همینطوری که نیست هر کسی برای خودش یک حدیث رو بونه استنباط بکنه برای خودش یک دلیل حدیث رو ما روح داره ازش استفاده بکنیم اینطوری که نیست بیراه بری رو باشید که جازاره تاروییم و رو فرده چما ففرده ایتران به آنها شمی قول آهی فرسالی بود با اونم که شما قولاتون نفرده بود خلاسه نداره شکرمش که این قولی کدون یکیتون از قول آهی نمو برزاری درسته بردگرمون خود احادیست احادیست یعنی درمان جوحلی جنبان تدیلی و نحنی موسفی آوردن نحنی موسفی ا ا حدیثی آورده تا تجلی بعد تحریف و صحت دو اثر در خودش حراثت کرده‌اند و اصولا فاست که خلافی آمیز و قبول رو چیزیه و برداشتی کردن حدیث رو غیر از تحریف رو قبول. اینو ادعا در خود اسناد حدیث اگه بحث باز می‌کنید شما نظرتون درباره در ی حدیث صحیحه بودش چیه؟ ما داشت قباله بحث رو شما داشتیم داشت. ما جلو فرداشیم به بحث حدیث صحیح بخاری روی تابلوه هر برای رساله چون اینا در چه مسئله و چون که درطا هم مطرحه. این حدیث صحیح بخاری من در دیوان 7 حدیث گفتم. علای حدیث بخاری جنبش به اعداد 14 تا اتراظ هست. چرت اعتراض به اسناد 8 تا اعتراض بر اسناد 12 تا رشید اعتراض اگر یک اعتراض بهش فرداخته شود دوازده اعتراض دیگه مونده اگر لطف بکنن اون 11 تا دیگه اش هم بگن تا ما جواب بدیم باشه شما هم که دارید شما هم برایان اون حدیث سوپرایز بخوایم بله یکسه حلول اعتراضی چوبشی داره از لحاظ سنتی از, از لحاظ اسناد بگیم تا بریم به متن یکی یکی بحث گفتی که از لحاظ اسناد مشکل داره که ما گفتیم مشکل بر طرفه هیچ مشکلی نیست پاسخ دریمه گفتاره علمای علمای حدیث دیگه مونده یعنی صد تا دیگه مونده تفاضل بر اسناد و هشتا بر متن ما دارید خلاصه چیزی که من بهش رسیدم یعنی از اعتراضات نوشتم خب Dojte që kanë fikurën darvad eslad vaq dar fin hadis daq bin el eraq wala moj hadis fin hadis muallaq la qaya chet nis wala wala sachmoni nis wala wala mina qulte ki qulte ki hada ja na qulte ibn hada ja na qulte ابن حجر ابن حجر گفت. ابن حجر گفت. ابن حجر گفت. یک حدیث حضرت معننه که باب، اصلا نباید شده. هم نباید شما دارید بگید، شما. گفته شده ابن حجر نمیگه، یک گفته شده، یعنی کی گفته ابن حجر گفته؟ ابن حجر قوله معتبره، در مقابل ابن رجب در مقابل ابن رجب قولی معتبره. در مقابل میزد در مقابل متخصصین فن حدیثی گفتند ابن حجر شخصی بود که سنن ترمذی رو نمیشناخت. ابن حجر رافی، سنن ترمذی رو نمیشناخت. Në madhnie ti ke gufte shoq, ti ke gufte, Nehas gufte, Tanha katë gufte Nehas në. Jo dini madhështinë e këtij, Nehas gufte. Ma sheh xhaktë shoqë. Ro s'a digar beshervaq nadarim janbagare Hashimi agar fasit ke man va tarazat khodam degar agar shoma shoma ta'lif gine ayodi ma tanang darat ma tan de so na amore taros bare so ret ada agar fasit darat bokunam bege bastay nan tasheyo ki tawdi'i faqat bi mo'tamar robati yaskun hada al-khatib fi al-qari mu'allaqa ta'ni haddi la tashid hada kam مسافیره مثلا تا تقریبا دسته تقریبا در حساب کشید قدم 6 رقم حالا دقیقا داشت 6 رقم بعدن از سر چورم گذشت ابن حجر به چورم الان دیگه رسید به قل ششم هفتم Dherat që zakë shohim ai qasë na si ata që janë të vlerësuar në botë. Jo vetëm që individi ka punë, ka një çdo shans. Ata janë të vlerësuar. Do të thotë, yani, alë tasdik darqachi daqan darqachi mesobat ke in hadith bukhari ki his ismaili ibn hazan meslah ibn jamaa ibn qaiy ibn kaseer ibn munaqih araqi ibn rajat ayni ibn hadat saadi ahmed safir albani hamija neveshte muttasil es midiran ne ke tanha injo 4 15 ta ke man neveshtam chant to nokte gozashtam ke jala binivise chi hastan inoda yani ibn hazar moqabiyoz darqachi dar moqabel inoha chi hastan yani aymay kya hastan شما شما قیدون احفاد و تحصیل کنگلویست خیلی میگونید تحصیل نیست شما علم بیارید دلیل بیارید بر اینکه اعتراضشو بارد ما دانیم میگیم اعتراضشو بارد نیست ما برسی که گفتیم علماء مستبع حدیث میگن معلد حدیثیست که باسطه نباشه منجا باسطه نیست بینه شام نعمار بخواهید No, derasim durdurulmaz, tatil veya tatil hakları رجال حميد درستا beyin deriktir رجال حميد hol ahlifas neyadir? Siz gereksiz itiraz varır bakuniz, cevap veriniz. Holama da razı değilsiniz, doğru çana. Holama da razı değilsiniz. Bana ne istiyorsun tabii var, çok detaylı cevap vermeden. Bey, siz de bana şimdi ama tekrar avukatlar Vetë artisti që si, allora la famiglia maszona che potete fare i mostrimi, kujë po te diete asha, dace kitab. Dace famer organizacion bëroni. Arrul Ahmedi. Nuk bëni. Eh, arrul asan lakëshë ndaran. تأثيرت بورنا دارا بالفعل فقط أولا تخصير من الوصول يرام ولكن جوزة كهتانية في المائلة تعبير تحرين المسيقين من التفاق بالعظمات والعظمات والعظمات لأن صحيحة المنشيطة سنوان الجربلدية إنهم قلت ولكن جوزة كهتانية في المائلة معروفة أثبت إنك قائل بشيء مدين مرافض المسيقين چه خسنو دارید چه بریم بفرستیم حدیث صحیح بخاری چه مشکلی داره ما کاری به کیل و قوال نداریم فلانی گفت صحیحه من کار ندارم اینو گفتند صحیحه چرا بگید چه مشکلی دارید این اصلا فقط از نظر بشریشناسی رو برام هر کاری از هر کاری براتون پس چه مشکلی داشت شما گفتید معلق شما میگید شما گفتید معلق است شما گفتید معلق است چیزی رو ندارید اینجا گفتید معلق استری تو بخاری خب چه کار میکنید با موسی مسح که شده هست چه کار میکنید با حسن ناصفیان چه کار میکنید با این طریق یکی یکی Shuma do se ataki qeshom na amat mushkil dare. Po chi kar mikunid ba in tariqi ke beshro ban be? Satat chaqata de shurua mikunan. Abdul Abdoha bin Rajab bin Rahman bin Ibrahim va Isa bin Rahman. Mukori beger Bukhari bo ast va che ma lazem nist aya? Che lazem nist? Aya lazem e. حدیث. شما دیگه شما دارید دیگه این حدیث میشه بخاری مشکل داره که معلق است ما گفتیم این حدیث فب رو شما بگید معلقه کتی دیگه طبرانی مدعل که نمیدونن طبرانی در کبرا و بیهقی متصل روایت کردن شما میگید اینجا متصل نیست خب چجوری دیگه متصلش دارین خب جای متصله یعنی چرا بخاری متصل روایت نکرده گیرین من جواب چرا بخاری متصل روایت نکرده چون شما فکر میکنید متصل نیست متصل چرا متصل فکر میکنید عرفش خاطری <تصفيق> شورا شما تعریف معلق رو ندونید معلق وقتی واسطه نباشه اینجا واسطه نیست چرا دونید که دونید گفتن حدیث معلقه یعنی قاعده مشکل در از علم حدیث مشکل در تعریف معلق را ندونید معلق, معلق, حدیث معلق حدیثی است که واسطه نباشه واسطه بین دو معلق حدیثی است که بین دو شخص واسطه باشه یعنی ملاقات با همدیگه نداشته باشه بیاد اسناد حفظ کنه این معلقه یعنی بین اون شخص dhe o shaktë digjerë që ashere vajt mikone o shaktë do vaje o shaktë do vaje ai do muallaq qolof kitabai mosalah qolof bukunah bel bel sard bel sard bukunah malj somanije baqara ai muallaq ne qolistan bel sard bukunah muallaq sheh pang njerë digjerë این نفر از ائمه امام بیهقی از کبار ائمه شافعیه چرا بخاری متصدقات کرد؟ ما شرطا بلفرض الان قبول می‌کنی بخاری متصدقات کرد؟ چرا؟ چرا؟ میگه فقط بده چرا بخاری بلفرض الان قبول می‌کنی بلفرض قبول بکنیم که معلقه بلفرض قبول بکنیم که معلقه چرا؟ خب دیگه الان علامه طباطبایی گفته ان حاجت انما حاجت کی گفتی ان حاجت خب یک لحظه شخص جوابتون بدم شما بگید این حدیث معذر داریم بلفرد مثال ما بگیم معلقه بلفرد ما بگیم خالا شما بگید چرا بخاری معلقه مورده ما به چند دلیگ میگیم یک یک به دلیگ این, این که امام بخاری همون تو که ابن حضر بگید در یه احادیث امام بخاری چون در اون رابی بعدن مشتم دیده نخسته که احادیثش را بداره مستقل بیاره مثلا بل امام حشام و عمار در آخر عمرش دوچار اختلاف شده شکی درش نداریم ولی که این حدید قبلا یعنی قبل از ساده دیویس و دوارد آن چید که نه از تصفاتی برای تو میخونم شیده امام بخاری اون ناید با سیغی کاله رواید کرده غیر از این که گفتیم امام نکتیر میگه کاله رواید سفاده کرده چون امام حشام و عمار نگرده که براش خونده یعنی از کتاب هشام عمار خوانده از باب عرض و مناوله هست خوانده کتاب هشام عمار و هشام عمار تعلیلش کرده بر اون روایت پس این دو تا علت این شما دلیل اصلا دلیل خاصی ببین تسری میده نه کجا میگه اینکه از کتاب میگه ان شاء الله این کالوجیه که برای مقایسه چرا منواله برقرار بله از کجا Pekhulbari ibn Hajar Aztalani Hema shi i nja qustanet Hema shi i nja Hema shi tkhmih qustanet Bera i tkhmih qi e Tkhmih qi e Tkhmih qi e Tkhmih qi e Tkhmih qi e Tkhmih qi e Tkhmih qi e Tkhmih qi e ننقر إن جريد بودا ابن كثير <تصفيق> ابن كثير لم يخالف في ذلك غير ابن حجم الظاهري والفرطبي لم يخالف في ذلك إذلك إذلك إلا بعض المغاربة نبقى من الحجم فرطبي <تصفيق> فرطبي أم حجم فرطبي أم حجم لم يخالف في ذلك لذلك حليث متدد الاخرى لم يخالف ابن كثير بيقول كذا اقتراح بعض الكونات لم يخالف في ذلك الا بعض المغاربه بقى المغاربه ابن حجر خلطوا يعني اقوال اللي من ميقول ان متصله لا هيك امام ابن كثير ميقول لا هيك امام ابن صلاح ميقول لا هيك النبي تنها ميقول لا هيك ابن حجر تنها ميقول لا هيك تخاوي تنها ميقول يا سيوتي تنها يمكن دوله في ليس بس طبعا دي مش ما نيست یلا <تسجال> این گفتن که من گفتم در صحت این حدیث اجماع نیست اختلاف هست ولی اینکه آیا این اختلافات اعتبار داره نداره اختلافات بی‌اعتباره یعنی شما ضایع و اعتبار پیش فرض شما پرذبیری و اینها رو از خشکی علماني در تاریخ ما به عنوان شهر شهر در این مساله شذوزت یعنی شما وقتی خشکی علماني یعنی نمی‌دونی چیه شما دیگه یک اصلا هر چه ورا نظر حنکو نی دارید اجماعی که شما خدای خدا فرض است اسقاط علماني فساد قوله به خاطر قوله اسقاط قوله این قوله با دلیل داریم رد می‌کنیم یا با یا بدون دلیل اینی عجی بخونم در مورد عقلی که نه یجما چطو تعریف سره میخوای برات بکنم از یاد کنم مطلقا میشه حول مختصا میشه حول اسماء اینی که ادعا بشه در یک مسئله که حرام باشه یا واجب باشه تقی نیاز انکار بده نه بکنه اون قضیه و بیا برخلاف اون حرفی میزنه در اون زمان و فاصله هم طولانی نشه فاصل ال مانشفی و فاصله هم توانا اینه مدت زمان کتاهی اگر توانی شد ازمع سرکوتی حتی اعتبار داره همونطور که مام شافی و امام شافی میگه ازمع سرکوتی اعتبار داره اگر فاصله توانی شد اگر ما فاصله کتاه بود و کسی نیومد اون ازمع اعتبار داره شما نمونه برای اجمایی که شما میگید برات ازمع صحابیت برخواستد یک نمونه برای اجماع نسال بزنید شما کنیم نستن موسیقی اجماع یک طرف قضی هست نت کن یک طرف قضی هست اجماع هست، نت کن هست ما دلیل یکی که نداریم نت هست، اجماع هم هست مثلا به فرد، به فرد، به فرد مثال خروج برقه کام خروج برقه کام نت هست ولی که بعدی خروج کردن، بعد مخاصدش که دیدن عیمه اجماع نفت کردن برش این یکی دوتا که دیست نیدید جنها این مسئله چندی مسئله هست که علما نصر هست اشمال هم نفردن مثل علامه اشمال کردن اشمال کردن دردار من که تاست اوکه جدال فهمش دیگه نه دیگه درست محض قرومه ما فرانونی که کسی دیگه بزار مطرم از اساسی شد بزار درست بزار عزیزی یعنی نمای دیگه از مسئلهی دارم سعادی دارم با شما فهم میکنم بیگه نفر سیرتی ن janorja e zonjëne jam i sadhë të ishte po të ta kemo saatë 8:00 deri në 10:00 për të diskutuar ndërkohë që po vijë jam punëtar. Jam çfarë dëgjoni? Në rvizi dateTime 2006 01 01. Në rvizi 2006. Saatë e 8:00 deri në 10:00. ë, a jeni organizator i asaj? قرار ندارید حالا من یک تقاضای دارم از شما یک تقاضا بفرمایید من درخواست شما شب 3 دقیقه بعد می‌دم صحبت‌های دقیتون رو بگی بعدش اصل دقت چیزی صادر برید تا کانترا کانتراکت طرفی طرف طرف طرف تو حدود 80 صفحه حساب حالا یادتون هست که جدول صفحه 3 سوال 3 گزینه 3 و یک کمی گاه هایی که پنسته در حالت هست حدود صحبت های شیو حتی اون هفتان دقیقه هست برای پس این هایی هم که دام صحبت دو سلیه تشش شیده پرسند داره خاییم که به اون رو آماده کنند بس هم زیاده میشینید تنگیرهایی میشینید آماده آماده هستید ہم مسودہ شروعوں میں یہ کہہ گئے یہ کہہ سکتا تھا کہا یہ کہہ سکتا تھا میں نہیں کہہ سکتا تھا سنا سنا کر لو نظر ا رہا تھا یہ کہا تھا بعض سواد نہیں ہے بزرگواران تصوف اللہ عزیز حضور محترم اساتید محترم اساتید مؤثر بحث علمی ہے ادلہ نقل مش ہے بالاخر پاسخ ہے نہیں من در این زمین این کتابی که می‌بینید آهنگ نریشن بالا به شرم که انشاءالله باعث افت قبل از چاپش هم بده حسین جناب دکتر این کتابی که تألیف کردم در بحث آهنگ که اینجا در بحث منازم ارائه شد دوست دارم تمامی احل علمی که هستن یا حتی اگر طلبه هامون یک نقصه در کتاب کنیم میذاریم اگر پاهمون نرزیده اگر اشتباهی کردیم اگر قولی را به کسی نسبت دادیم که اشتباهه دوست داریم ما را نصیح حق رو کنید ما را از جهنم نجات بدید چون میدونید دیگه بحث درو گفتن برای یک شخص بحث تقبل برای یک شخص بحث اینکه انسان بیاد با ظن و گمان شک برای یه قضیه بکنه خیلی مسئله بزرگه دوست دارم که ما رو نجات بدید اگه در اشتباه و گمراهی بودیم اگه در این کتاب اشتباه کردید ان شاءالله که تکه تپن حدیثات الله بهش مراجعه بکنن و اساتید هم نصایح از خودشون ما رو محروم نسازن در ضمن شرط هر موکدیه دیدی که تو سفط شما باقی مونده، نهایتن شما مطلق منصفی رو قرار میدید یا استثناات که های پایز ما گفتین جناب شیخ نفس حدیثی گفتیم که نه بر حرمتش و اون جاهایی که شده دست فقط تخصیص داده شده استثناء شده و اونم یا در روز شادی هست یا در روز ایب یا در روز عروسی هست که شر اجازه داده و گفته که رخصت هموندار که صحابه سنباد کردن این ها رخصت شده هموندار که ما بگیم اصل برای این که خوب حرامه مردار حرامه قطعی هست اشکال درش نیست میشه هم میتور اصل بر حرمتشه مگر اینکه دلیلی بیاری از اون اصل حرمتی حدیث در صحیح بخاری است خارجش بکنه مثل حدیث عایشه و دیگر احادیث که ده را استدلال میکنه و ادات تاکید بر انبیات رو استفاده میکنه تا انها ایومعی استثناء قول بشی و این چیزی هست که علمای لغت و علمای اصولش اجماع دارن که تا انها ایومعی نهای نهایت تاکید و نهایت تثبیت بر این علیت فقط این ها استثناء شدن و این ها فقط جایزن و در این جاها و در این روزها نه در روزهای دیگه نه به طور مطلق نه برای مردات بسید برای دخترا فقط اون چیزی که شر مقایدش کرده و اونم آلات فقط دفت چیزی برای رو خیاب سمیدید قیاس قیاس گفتیم قیاس در صورت علت قاصره نباشه علت منضبط باشه علت اگر منضبط باشه قاصره در اون مساله نباشه بله ولی که علت در این احادیثی که استثناء شده علت قاصره است و یا انضباط نداره درود الله علیه من ایشان فاضل خان در پایان هم تشکر می‌کنم از sa ta wasale shoha ke es-sahahet el-tamami hade dalil var ta ham kadir yani dar kala qalboman misal tilqon sa da rasta na mabawiyon walaka ananiya ikhtilaf ar-ra'y la yusabbab al-qada'iy jain ikhtilaf ra'yi daqat bayn man de'ab she'e salat ba'at mishe ke dar amma tisim deham qarin ikhtilaf ra'y hak و احتلاق بناید هم بل مرود خزیه و قد و خزیه بسی رو به هم نمیزن و شایسته افنا همین جوری باشید با, با, با, با رای او کسی را احتلاق راید و عمدارید شاید حمدیجا رو تقبل نکنی بلی تحمل کنی بل تقبل هست و تحمل چون من راید او جوهری رو نکسندم براید من، من به خبار نلستیدم po çdo ai dishin e karvaj vei dhe ju nëse ata të çdo të mendim çu bë qanëratin atë tani e darë darë në çona dalle shnahat nuk të së të zarqanë më të tan veri bafat të hamad harë do bëni të inkubatë që na ai marrin طبعه بست که ما باهم باهم باهم باهم با هم براده دیم، با هم دیوستیم، با هم هرکاری، با هم دیوست داریم به این باید خدا دیم کسیمات و دشمنی نمیشه بلی اختلاف ها در بین بزرگان و بلما هم بوده هست در بین کسی کسی مثل امام شاقی و امام احمد بوده امام احمد میگه که در خیل از مصحار تقیب و امام شاقی مخارفت درده ولی برشی که مثلش ریز رو که شافی یا میکنی؟ چه میکنی شافی یا میکنی؟ گفت که میدونی شافی مثل خوشی برای دنیا و مثل آف برونی مردم بود آیا این حدود از دنیا جایی کجی دیدوند؟ ریبانین حقیقت از شافی یا برو از بابنی تیمیدوند که در خیلی مصالب به میا باشی اختلاف نظر دارد انده یون به هر منابره نحیجه اختلاف نظر در اختلاف نظر در اختلاف نظر و در حسن ایں وقت بھی سوچتا ہوں کہ بتاش کرتا ہے میں بھی موجودات کو دیکھیاں میں جواب رائے نهایی شما اس کی ہیں جو ما کی نهایتانہ تجری نہیں کریں ابتدا انسان فقط کشی تھی کہ در حقیقت در زمین نہ نہ فقط خود ہمارا کہ اور یہاں پر تعداد آدمای کہ نشاستن داور وجود داره صداقت جویاں میں ہوں ان شاء الله کہ ایک تحدید به نفس نمونه 10 باشی شده برای چیزای دیگه خود مناضصن ذهن رو تحریف میکنه ذهن رو به لحاظ خلق میکنه برای کشیدگی برای زمره دیگه دفتر اما من تطبيق میجام به شورای خدا و مسئله متأخر مسئله معرفت که این برنامه رو در نظر دارم میگم ان شاءالله شما باشی من در پایان باز از شیخ طلاق اگر خدای نکرد در تیم صحبت لعزمتون کردم به علم صاداری و نظر طنجدار هر چیزی باشه Më vjen falënderim që na dëgjoni, faleminderit shumë që vani te jne, e faleminderit shumë shëndetën. Ja ne mund të ardhim pasdit, të kemi këshillën para, faleminderit. Faleminderit shumë, mahamedi, t'ju faleminderit. Inshallah ti jave të të përgatitësh. E tashme. Ju faleminderit, ju ju faleminderit për këto. E ndër tani مطالعه روایت از ستیله و روایت دیگر جان قرار در خلاصه داشتنا چه در ابتدای صحبتش فهمید که مسیح به رو به خاطر خدا سلام نمی‌دورد اما خدام که متفقه خودش نمی‌دوند در اصل آدمی در یک جمله سن بله ما دقیق جملات رو گفتم به نظر من موسیقی اینکه مثلا حداقل اگر انسان رو کمک کنه برات خدا دان کمک کنه انسان رو بر نخوام کمک کنه انسان رو بر تاریخ چیز خوبیه موسیقی مثلا فرض کن چه مثلا سامو یوسف می‌ذاره و ادش در از اشراف پیامبران رو ضمیمه مثلا یاد می‌گیره خب این موسیقی است که شما رو واقعا به یاد است پیامبر صلی الله علیه و آله انسان خطر رسو وصل اصلا جایی اصلا جایی نمیونه و ولی موسیقی که طرف دلش هست مصیحات مبتدا مصیهای فش موسیقی های مدبی موسیقی بهسان رو از دنیا تیم میکنه لعرض میکنه همه چیزا این مصیحات هیچوقت در وجود من تاثیر نمی کنه و یعنی اینجا زمان مکان شرط مطرح Adam mushtehit dast hizmete taat bashin halal e dast e ma'naf bashin halale va in hukmish hukmish baxteda yut hukm baxteda afdash Allahu akbar tashakkur ediyorum tashakkur ederim ve masuliyet سلام عرض دارم با عرض ادب و احترام به آقای عزیز شما بسیار خوشحالم که قرآن و سنت رو علامت اسلام هست و برای من وجود تو در این دانش خیلی مهمه زیاد میل های نه از نه راس توژه باشه ببینید در حضورت در منادوره اصمام میشه اجیب اتا شاید خوبی هایی هم کشی میاد به حدیدی دادید و ما در خاییده امیداریم که با اصمم منادوره در موضوعات مقرد داشته باشیم حتی اگر که ما در یک بکن مخالی سمیده باشیم سیکی نه شما خالید میاد بازیم مخالیم مخالیم Allah inshaallah e bayan bëram nane bëram nane darave sheh bëram sheh qe ndo adizoni ma darurat man kena e bozavarane udiratoru e mas'ulie idade dam ki huzur qash bash inshaallah qe faide bërdë vashin vali darqurat se zinayun los pokan dhe nuk ardhën se nuk ardhëm në ndërtë shëndetësh duke u qenë pa uja bekon për një ditë mund të ardhën për një çajënisht nuk ardhën